حالو حالو سلام های سخابتی سلام حالو شما اونجا داره خیلی ممنون شما چطوری؟ خوبم ممنونم شما آقای؟ احسان هستم آقا احسان از کجا زنی میزنی؟ اسفحان از اصفهان خب چه خبر ها؟ سلامتی شما خوب هستی؟ خیلی ممنونم یکم فقط میشه بلندتر صحبت کنیم بله بله حتما آه آه من پادکست ربیتون رو گوشت دارم خب مطرح با شرح کنم شما. اوکی. اگه میتونید نظر بدید. بله. اگه ما تا کاری انجام ندیم و اشتباه نکنیم و هزینهشو ندیم، متوجه نمیشیم که چطور اون کارو باید انجام بدیم. خب؟ و معمولاً هم قبل از انجام یک کاری، ما به نصیحت‌ها و تذکرات و توصیه‌های دیگرون زیاد گوش نمیکنیم نمی و گوشمون کجره برای این صحبت‌ها. خب؟ پس این همه کتاب و سخنرانی و مقاله و نشریه و پوستر و بیلبورد واقعا چه تفریدی داره تو زندگی ما این این به کدوم پادکسته همین قبلیه بله بله من من این گیج شدم ارتباطش رو نمیدونم با این یعنی این سوال شما درست ولی ارتباطش با پادکست چیه ببینید مثلا تو پادکست قبلی صحبتی که مثلا شد درباره این که قضیه یه آب زایندارود اصفاهم. <تصفيق> اون هزینه که ما باید مثلا برای درد دندون بکشیم و بدیم تا متوجه بشیم که باید از دندونامون مراقبت کنیم. درسته. خب یعنی اگه قرار ما با انجام دادن و به مشکل خوردن و اشتباه کردن و هزینه دادن بفهمیم که راه درست چیه پس مقدمه ای که توری بقیه برای ما آماده چه تأثیری برای ببینید مسئله تفاوت شدم مسئله تفاوت دانستن و عمل کردن به دانستن است یعنی تمام موضوع اون پادکست و پافشاری من بر این بود که بین چیزی که شما میدونی و این چیزی که بهش عمل میکنی یه فاصله و شکاف خیلی بزرگی وجود داره تمام کتاب ها و تجربیات دیگران کمک میکنه به اینکه شما یک چیزی رو بدونی هست، اطلاعات. اطلاعاته ولی این منجر به عملی نمیشه حرف من اینه که دانستن چیزی کافی نیست عمل از یه جای دیگه میاد ریشه در جای دیگه داره که خیلی پیچیده از اون چیزیه که ما فکر میکنیم بله به نظر شما تأثیر گذار هست بس اون گفته ها؟ ببینید تأثیر گذاره بی تأثیر نیست ولی نه برای هر کسی و نه در هر زمانی اینی که میگن وقتی شاگرد آماده میشه معلم سر وکلش پیدا میشه یا اون شاگرد معلم رو میبینه فلسفش اینجاست که این اطلاعات در دسترس همه هست ولی چه کسی از اینا بهترین استفاده میکنه کسی که اون نیاز رو در خودش حس کرده و اون تشنگی رو به دست آورده تشنست که مولانا میگه آب کم تشنگی آور بده دست به خاطر اینه که کسی که به اون میزان از تشنگی و اون درجه از نیاز رسیده در اون حالت اون وقت اطلاعاتی رو که به دست میاره کتابی رو که میخونه به کار میبنده در حالا زندگیش و ای که داره ولی کسی که بدون به صلاح اون حد از تشنگی مواجه میشه با اون اطلاعات و اون کتاب و اون دانش این رو به کار نمیبنده و صرفاً معلوماتی میشه اضافه بر معلومات قبلیش همه حرف من این بود بله درسته حالا این مطلبی که شما گفتید من جدی یه مطلب دیگه تو همین زمین افتادم بعضی اوقات توی کلاسایی که مثلاً برگزار میشه برای مثلا کسب و کار کاری <تصفيق> واقعا از اون جمعیتی که تو کلاسه بعدا که سراغ میگیریم شاید از کل کلاسی یکی دو نفر اون صحبتها رو به عمل تبدیل کردن و حالا کسب و کاری رو انداختن از اون صحبت در عمل استفاده کردن ولی به حقیق فقط شنونده بودن و یه، به قول شما یه تلاتی گرفتن حالا اصلا ممکنه هیچ موقع در زندگیشون به عمل تبدیل نشه درست <تصفيق> و اون یکی دو نفری هم که این کارو کردن مطمئن بدون اون کلاس هم این کارو میکردن. اون اطلاعاتی رو که اون کلاس بهشون داد از یه طریق دیگه ای حتما به می آوردن به خاطر اینکه به اون حد از نیاز و تشنگی رسیدن که حالا ثبت نام کردن اومدن این کلاس و این که اصلا این کلاس ثبت نام کردن شاید محس میزنم نمیدونم ریشه در اون تشنگی و نیازشون داشته تا ریشه در اینکه حالا بریم ببینیم آقای استاد چی میگه آیا یه فرمولی برای پولدار شدن ما میگه ما آیا یه میانبری تو زندگی پیدا میکنیم اصولا اون یکی دو نفر یه همچین نگرشی ندارن ولی اون 98 نه درصد بقیه احتمال این که با این نگرش اومده بوده باشن سر اون کلاس خیلی بیشتره موضوع موضوع این پادکست سفر یه آقای احسان خان من یه سفر در پیش رو دارم میخوام سو استفاده کنم از تماس گیرنده ها به من راهنمایی کنم کنن که چجوری باید سفر کرد چجوری باید سفر کرد حالا شما هم با کسی که سفر خیلی کم رفته خب حالا تو اون که کمی که رفتین حالا اصلا بذار اصلا سوال اول معصر میشه که چرا سفر کم رفتین زیاد... یعنی یه جوری اطلاف وقت میدونم سفر و اطلاف وقت میدونی با... یعنی اینکه من چیز زیادی یاد نمیگیرم در سفر اه. برام معمولا نگه مسافتشم خیلی طولانی باشه برام رسیدن و تیکردن مسیر برام خیلی خسته کننده است اه. البته بس دیگه داره که همسفر آدم کی باشه و اوقات اون نفری که باش اون سفر رو د... انجام بدیم انقدر آدم خوشحال و جالبیه که اون سفر خیلی کوتاه میشه، اون مسیر خیلی کوتاه میشه تا برسیم به مقصد. حالا این که شما سفر کم رفتین، آیا اساساً سفر رو احساس وقت میدونین یا اینکه هم سفر خوب کم پیدا شده براتون؟ من اگه مجبور باشم سفر می‌کنم. مثلا اگه نمی‌دونم برای یه مصاحبه شغلی مجبور باشم برم به شهر دیگه و خیلی هم واجب باشه و احتمالش هم خیلی زیاد باشه که به نتیجه برسه سفر رو به خودم تحمیل میکنم و میرم و سری بر میگردم. پس،, پس سفر از نظر شما یه امر واجبی نیست که یه نفر حتما مثلاً باید بکنه و اگر سفر نکنه چیز بزرگی رو تو زندگیش از دست داده؟ من من مثلا اگر بخوام برم یه سفر ترجیح میدم که چند ده ساعت در مورد اونجا مطلب بخونم <تصفيق> تا اینکه مثلا با آدم مختلف اون شهر چند ده ساعت صحبت کنم. چون فکر می‌کنم که اطلاعاتی که به صورت کتاب و مقاله شده خیلی عمیق تره. شایددم خیلی هم شادم چون من امتحان نکردم شادم اون اطلاعاتی که اون افراد در محل به من خیلی دست اول تر باشه یا چیزایی باشه که حتی تو کتاب و مطلبی تا باشه اخر فقط اطلاعات نیست یه سری چیزا تجربه است مثلا اون غذایی که شما شماتون شرف میتونین بخورین یا اون اون منظره ای رو که ببینین یا اون ساختمونی رو که ببینین اینکه با کسب اطلاعات به دست نمیاد این تجربه است اینو چه جوری میخواین به دست بیارین ترجیم می‌دمم که یک کتابی که یک اکس از اون منطقه گرفته باشند و ورق بذارم و ببینیم <تصفيق> خب اکس هم به ارحال اطلاعات دیگه یعنی اه اه اه شما چند سالتونه؟ من 33 33 سالتونه برد. صداتون یه ذهر بزرگتر به نظر میان نمیدونم مثلا یه موردی بوده که سفر کرده باشین و فراتر از اطلاعات چیزی گیرتون اومده باشه مثلا آخرین جایی که سفر کردین چی بود داستانشو میشه بگین؟ آخرین جایی که سفر کردم زمان سربازی بود که شمال رفتم و من فقط رفتم رسیدم پادگان رفتیم داخل پادگان تا سوف اونجا کارای اداریو کردن گفتن برگردید اصفهان خریداتون رو انجام بدید کفشو شینو لباسایی که بعد اندازه‌تون بشه را اندازی کنید برگردید من حتی تو شهر نرفتم برگشتم اصفهان و بعد از چند روزم برگشتم پادگان یعنی من اصلا داخل شهر نرفتم یه مدتی که شو سم... یعنی اصلا هیچ جذابیتی براتون ندوش که شهر دیگه اصلا با آدماش دوست دارم صحبت کنم ولی معمولا اخر آف... آه... کمتر شده که آه... جذابیت طبیعت یه جا یا موقعیت خاصی که اون منطقه داره باعث شده که من به خودش بیکشونه بخوام برم اونجا بیشتر ترجیح میدم در موردش بخونم تا ببینم. جالبه من دو... تو خود اصفهان چی سفر تو خود اصفهانم نه خیلی کم. یعنی ج... م... شاید کسی که مثلا یک هفته بیاد اصفهان بخواد همه نقاط تاریخش رو ببینه از من بیشتر اصفهان دیده باشه. باهم پس خیلی جالبه یعنی،, یعنی هیچ کنجکاوی نداریم بدون این شهری که درش زندگی میکنیم مثلا چه, چه جاهای دیگه ای داره بریم ببینیم والا. شاید بخاطر این که همیشه فکر میکنم در درسته سمون هست هیچ موقع انگیزه نشده شاید برای کسی که میاد توی نقطه سفر میدونه که بعد یه تاریخی برگرده داره برای هر ساعتش هزینه میکنه پس باید خیلی برداشت کنه از اون منطقه که سفر کرده. درسته. ولی برای کسی که تو مثلا اصفهانه شاید مثلا در شهرهای دیگه ایج یا تابستون بمونن و ها میشن اونجا با مثلا 3 روز وقت به سرعت بخوان جای تاریخی رو ببینن، رستوران‌ها رو پیدا کنن، غذاهای محلی اصفهان مثلا بخورن. و یه خاطره خوبیه جایی خاصی عکس بگیرن و برگردن. ولی برای کسی که شاید مثل من باشه تو این شهر باشه و فکر کنه همی... هر موقع بخواد میتونه همچین نقاطی رو بره همچین امکانات رو استفاده کنه شاید به قول شما آره این ولی این چون هر موقع بخوای می‌تونیم ولی هیچ موقع نمی‌کنیم بله. یعنی دائما دارین رو به عقب‌تر می‌ندازید آره بله. بله. همونطوری مبحث گشادی که الان ادامه داره یعنی یه موقعی قرار ما این شهر رو بریم خیلی خوب ببینیم ولی اون موقع که معلوم ب... نیست الان الان دو تا چیز میشه تو ذهن من یعنی این که شما اسفحان یا تا جاشون رفتیم ببینین از اینجا نمیاد که اصلا علاقه ای ندارین که ببینین علاقه دارین منطبا میگین حالا فرصت زیاده آره مثلا اگه ده سال پیش من مثلا رفتم به نارجومون دیدم بعد دیگه کی بشه مثلا اگه این خط خورد تو لیست من <تصفيق> شاید مثلا این افرادی که مرتبه اسفحان میان بار چند اومشونه چندین بار به اونجا سر زده باشند برای کسی که همیشه <تصفيق> در دست بعد بعدم نمیدونم چجوریه که انگار وقتی کنار حتی یه آثار مهمی هم باشی و هر روز از کنار شرچی برای تو عادی میشه و دیگه اصلا نداره یعنی از روح پول سی و سفول که میشم من فقط میخوام به اون طرف خیابون برسم و برم کارم انجام بدم کل مسیر اون پل شاید اصلا برای من فرق نمیکرد با یه جاده که من آسف اهم ولی هیچ وقتم نرفتیم سیسته پلو مثل مثلا یه توریستی که اولین بار میاد هم ببینی. نه فقط یک. یه بار که یکی از آشناهامون از خارج اومده بود مجبور شدم ببرمش یه جای نشون بدم که اونم دوست داشتم هرچقدر زودتر کیفش اون بکنه و تموم بشه برگشت <تص> البته یه چیزی هم تازه ذهنم هست اینم جزو اون کارهاییه که هیچ‌وقت شاید نکنم. یه بار یه فوتوبلوگ درست کنم از عکسای اصفهان. شبکه اجتماعی که مثلا به خاطر گرفتن اون عکس مجبور بشم حتما هفته یه بار برم یه نقطه اصفهان یه چند تا عکس خوب بگیرم. شما عکاسی می‌کنین؟ نه. با هم آم با همون دوربین کوشی شغلتون چیه شما؟ شغل که فیلن بیکارم ولی دشتتون مهندسیه دشتت مهندسیه حالا شما برای من که میخوام یه سفر کتایی برم استانبول مجبورم هم این سفر رو برم یه سفر کاریه چه توصیهی داریم؟ های دیدنی داره های جشفاره خاصی داره من که خودم این کشور خارجی میرفتم چون به سینما علاقه دارم سعی میکردم حتما ببینم که از فیلمهای روز هالیوودی تو اون کشور فیلمی اکران میشه یا نه برم با اون کیفیت یک فیلمو تماشا کنم رفتی سفر خارجی تو به حال؟ نه نه همیشه چون سینما دوست دارم دوست دارم مگه یک بار رفتم خارج حتما برم سینما و یکی از سیلمای روزو با اون کیفیت بالا تو سینما ببینم. کیفیت بالا مگه کیفیتشون از سینماهای ما بالاتره؟ بله بله. پخش آی مکس دارن که چندین برابره. اچ دیه. سینماهای ما اچ دیه؟ نه نه. سینماهای ما الان من خیلی وقتا من کم شده که برم سینمای خودمون. ولی اون کنبالی که رفتم رنگ پریدگیه. و فیلم اون کیفیات بعد صدا باعث شد که پشیمون بشم تلفن بگیرم تو خونه فیلم ببینم. ا سرگرمی تون چیه شما؟ من بیشتر کتاب و اینترنت و فیلم. کتاب، اینترنت، فیلم. خب یه فیلم خوب برای معرفی کنیم خوبی که من دیدم قاضیه جاج محصول 2014 هم هست آجدیده آره به نظر من فیلم خوب بود چیش جاله بود براتون حالا مجموع شمیه تیکی فیلم فیلمو تعریف کنم آکی داستان یه قاضی بود که چند تا پسر داشت و یک از پسراش باز شده بود که یکی دیگه, دیگه از پسرهایش تو تصادف دستش مصوم بشه و با اینکه بازیکن خوبی میتونست باشه توی بیسبال دیگه نتونه ادامه بده و برای همین همیشه پسرشو سرزنش میکرد اون پسر رفته بود توی شهری وکیل معروفی شده بود و حالا اون قاضی که تو سالای آخر کارش هم بود و به زودی بازنش شست تصادفی براش پیش اومده بود و داشت محکوم میشد و از همون پسرش کمک گرفت تا بتونه بیگناهیشو ثابت کنه و چیزی که برای من جالب بود توی این فیلم این بود که اون قاضی میتونست با یه دروغ ساده خودشو نجات بده ولی قبول نمیکرد. کرد می من شرافتم و زیر پانه میذارم حاضرم حتی زیر سوال برم بگن این قاضی محکوم میشه و زندان میره ولی دروغ نگم لا اگه خواستید لینک فیلمم توضیحات فیلمم براتون می‌ذارم زیر این پادکست فردا هر, هر موقعی که ممنون می‌شم بله خیلی ممنون چیز دیگه‌ای هست که بخوین اضافه کنین به این پادکست؟ والله من خودم یه موضوع داشتم برای این پادکست ولی حال نمیدونم فرق بگین به نظر شما چقدر حرف و نظر دیگه‌مون بعد زندگی و تصمیمات ما برای ما مهم باشه اه نظر خودتون چیه؟ من در عمل دیدین که تاثیر داشته ولی فکر می‌کنین که نباید داشته باشه؟ من اون چیزی... بله من معمولا اون چیزی که می‌خونم و خیلی چیزا خیلی اون چیزی که عمل می‌کنم با ویلا. همه همین طورن. من حالا من کوتاه بخوام نظر خودم بگم اه، اه، یه نسخه ثابت نمیشه داد خیلی بستگی به موقعیت و موضوع پیدا میکنه چون اصولا ما ما توی اجتماع زندگی میکنیم اینکه اگر اگر کسی بگه حرف و نظر دیگران برای من به طور مطلق اهمیت نداره و من کاری ندارم تقریبا بعیده که همچین آدمی دیگه وجود داشته باشه و مگر اینکه مثلا توی یه جنگل یه نمیدونم یه جایی خودش رو حبس کرده باشه به طور تکنیکی امکانپذیر پذیر نیستش که امروز کسی تأثیر نگیره از حرف و نظر دیگران حالا این دیگران امکان داره خانواده نزدیک و اطرافیانش باشند به با عنوانی افراد و آ، آ، یعنی کسایی که در حد فردیت میشناسه و باشون ارتباط داره نظر رسیدن بعضی وقت خیلی هزینه دارد ب... به نظر دیگران شما بخواید خوب به, به نظر برسید، بعضی وقت باعث میشه که اصلا خودتون نباشید، حقتون رو بخورن. ببخشید، بعضی وقتو بزنن، پس پس گردنتون می‌مونه. چی نگید؟ آره، اون اون یه اون فازه یه جنبشه، خوب به نظر رسیدن اه... یه جنب از اه... اه... اهمیت دادن به حرف و نظر دیگرانه جنبه‌های دیگه‌ای هم داره دلایل دیگه هم داره از جمله ترس همرنگ شدن با جماعت برای اینکه شما یه موقعیتی تثبیت بکنی یا شانس ادامه بقاتی که حالا امروزه به دست آوردن پول و موقعیت هفت بیشتر بکنی خیلی خیلی امکان داره درستن ناخودآگاه اتفاق بیفته این موضوع بنابراین از چندین بود باید اینو بررسی بکنیم و باز به سرد و اون موقعیت خاصش بستگی داره که اگر به حرف دیگران اهمیت میده به نظر دیگران اهمیت میده این از کجا میاد میگم یه نسخه نمیشه داد منتها بهترین کار اینه که هر کسی اول خداگاهی خودش تو موقعیت بتونه بالا ببره که من الان دارم مثلا این کارو رو میکنم تحت تأثیر نظر یا حرف چه کساییه چرا دارم این تأثیر رو میپذیرم چه نفعی برام داره اگر این تأثیر رو نپذیرم و نظر خودم و اعمال بکنم چه چیزی از دست میدم، چه چیزی به دست میارم. این سبک سنگینا شاید بیشتر کمک بکنه و واقعی تر بکنه قضیه رو. ولی اینکه یه نفر خیلی ساده بگه که نه من برام مهم نیست. این هم به خودش دروغ گفته هم به دیگران به این راحتی نیست. Okay. من برای استخدام بهجا مراجعه کرده بودم و صبح مصاحبه دادم و گفتم که خوب ما شما را قبول کردیم و شما بیاید کار کنید من از صبح که با این افراد شروع کردم ظهر رفتیم رستوران با همکارا بله و داخل اون خورشتی که بر ما اوردن من متوجه نبودم و دید که سنگ بود و من وقتی خوردم همون لحظه احساس کردم که دند پدر دندونم در اومد <تصفيق> ولی من به خاطر اینکه میخواستم اون همکاران نگن این پرخاشگره یا نمیدم اهل جر و بحثه من حتی نرفتم به صاحب اون رستوران بگم که این چه چهقدر غذا دادن به مردم <تصفيق> و جالب اینجاست که من بعد چند یه مدت یه مدت کوتاه دو روز بعد از اون کار کلن اومدم بیرون و خب برای یکی دو روزم که اصلا کسی به کسی حقوقی پرداخت نمی کنم فکر میکنم سد و هفتات خرچ دندونم شد و من یه حزینه اینجوری دادم برای اینکه فقط خواستم خوب به نظر برسم و بقیه در موردم نظر مصبتی داشت خال درسی هم گرفتین از این دندون که دیگر این اینجوری نکنین بعداً. یا هنوز به همون منوال ادامه میدین؟ بالا کم شده ولی صفر نشده. چون فکر میکنم یه مقدارم اه... تربیتی باشه یا اینکه شاید عادتی باشه که در طولانی مدت به دست اومده خیلی سریع نشه کامل کنارش گذاشت ولی کمترش کردم. یعنی مثلا تو کار بعدیم هر اه... با رئیس اصلیمون چند بار رفتم تو تاک بحث کردم و حق خودم گرفتم Ü -Ü -Ü -Ü. ولی تو همون کارم شده که یکی دو جا وا دادم و بعد خودم رو سرزنش کردم که مثلا اینجا نباید وا میدادی اینجا هم باید جلوشون در می اومدی میدونید مرز بین خوب بودن پرخوشگری بودن و مرز بین پرخاشگری و منفعل بودن برای من یه مقدار سخته یعنی برای همه سخته من فکر میکنم که اینا یه سری مهارتایی که شاید هر کسی با یه بهای سنگینی خودش به دست بیاره دیگه هیچ کلاسی که واسش وجود نداره. بله بله. اینی که شما باید در زندگی اینا رو عملاً به تدریج کسب بکنید تا دیگه خودت حواست باش و روش کار بکنید. بله. یعنی می‌دونید من متوجه شدم که آدم باید تو لحظه ترمز خودش رو بکشه وقتی به یه سمتی داره میره. اگه میبینه که خیلی داره انفعالی عمل میکنه جواب مثبتش زیاد شده. بعد میگه که دارم دوباره برمیگردم، انگار به اون موقعیت. آفرین. این موقعی هم می‌بینه که نه، همه چیزو داره پشت سر هم با داد و بیداد و درگیری داره حل می‌کنه. اصلاً یعنی هیچ جا نمی‌خواد بشکی رحم کنه. هم. اونجا هم بعد تو خودشو بکشه پس دارم از اون برای پشت بون داره دارم می‌افتادم. دقیقاً. آره ولی گفتنش آسونه، عمل کردنش نه تا چند تا جمله بود از احسان <تصفيق> و میگونن یه خواستی نداره و معنیم هم نیست که خودش عمل کنه یا عمل نه به حال اینجوری که خودتون داریم میگین عمل کردین تا حدودی حالا صد در صد نبوده ولی چون شما نیازش رو حس کردین تا یه حدودی بهش عمل کردین بنابراین صرفا جمله نیست نه با مثلا اطرافیان وقتی که بدونن که شما جاذبه دافعه داری یه جایی اصابانی میشی یه جای رحم میکنی خیلی برخوردشون هم نفت به شما فرم میکنه تا ببینن که یا همیشه داری امتیاز میدی یا همیشه داری همه را لح میکنی و میدی جلو دقیقا همینطوره دقیقا همینطوره آفرای بله بسیار خوب خیلی ممنون که تماس گرفتین آقا ایسان متاکر ممنون خوشحال شده خوشحال شده هم بربان شما خدافید خدافید کامرانت اسمهان الو سلام سلام کامران خوب هستین؟ خیلی ممنون شما چطورین؟ متشکرم. شما دومین تماس گیرنده از اصفهان هستین. واقعا؟ آره واقعا؟ اصلاً من همینجوری گفتم بذار تلفن بزنم. بعد اصلاً نه اش نه چیزی دفعه اول که شماره رو گرفتم خودمم تعجب کردم. اها. چطور؟ سلامتی؟ خوبین شما؟ ما خوب ممنون شما موضوعی داری برای ما؟ حالا موضوعی که نه موضوع خاصی مزرد. که ندارم حال و هوای شما این روزا چجوریه؟ حال و هوای ما؟ ما در حال سفر هستیم موضوع این پادکست هم سفر ما حال و هوای سفر داریم میخواستیم از شما بپرسیم که این داستان ارز مسافرتی چیه؟ چرا به مسافرا ها دلار میدن؟ منطقش خوبا. چیه؟ برای سفر خارجی فکر کنم برای دیگه مای سفر خارجی ام. بلجبار من باید یه سر استانبول برم خیلی آدیه. و 300 دلار دولار ارزون تر از بازار به ما به عنوان مسافر دادن خیلی خوب این منطقش چیه به نظر شما؟ منطقش چیه؟ اگه هر چیز به منطق داشته باشه؟ نه ما میتونه بی‌منطق باشه ولی خلاوم میتونه براش منطق پیدا کنی بسازیم. مایی که دارم سفر خارجی میرم چرا مثلا شما که به حال این،, این این یه پولیه که از یه جایی میاد دیگه درست غالباً شما هم درش فهیمی که شو سفر نمیری. مستعدمه. خب این, این حقی از شما زاویه نمیشه این یا فکر کنم از خزانه دولتی میاد. بالاخره بالاخره یه جایی به اون دولت و اینا بر میگرده دیگه. آره دیگه. حالا اونایی که میرن سفر و این دلار رو میگیرن نسبت به اونایی که نمیرن سفر و این دلار رو نمیگیرن چه مزیتی دارن اون که میرن سفر چه مزیتی دارن حال آره دیگه چه مزیتی دارن که سیصد دلار بهشون دولت میده یکم یه کم ارزون تر خیلی ارزون تر نیست ولی خوب یکم ارزون چه مزیتی داره شما افتح... چش میگن اگه مالیتون بهتر ما بوده شاید میتونیم بریم سفر خب دقیقاً اگه من اعتماد آره. مالی بهتری که میتونم سفر خارجی برام چرا بود دولت به من سوبسید دلار بده نه اینکه شما بریم مثلا از بیرون دلار رو بخریم شاید مثلا شاید مطمستم می‌شدم مشوق باشه که حالا منم که توانش ندارم برام سفر رو با 300 دلار چیکار میشه که 300, دولار. 300, دولار 300 دلار 300 دلار همینجوری نمی‌زنن 300 دلار یه زادا لاره مثلا 500, 500 تومان چون من از بازار آزاد در از خونترم مثلا جمعا 150, 150 هزار تومان ولی خب مثلا یه میلیون نفر سفر برن این 150 هزار تومان میشه چقدر 150 هزار در یه میلیون 150 میلیارد تومان 150 میلیارد تومان میشه به هر حال قبل توجه و این منطق چیه یعنی چرا دولت ما 150 میلیارد تومان به فرض در سال اگر من نمیدونم در سال چند میلیون مسافر خارج از کشور سفر میکنه فرض بکنیم اگر این عدد یک میلیون 150 میلیارد تومان در سال دولت سوبسید میده برای اینکه آدم‌ها برن سفر خارجی این،, این چه منطقی میتونه داشته باشه طالب بهش فکر نکردم نظر شما چیه من, من دقیق پشتش از اینکه مثلا اینو به عنوان یک شعار یک نمیدونم یک چیلی که بخوان مثلا بگن که ما این کار برای رفاه حال مسافر و رفاع حال من... که من... ام... ام... ام... حالا به حال این چیزا میتونی داشته باشه ولی من ف... یکم فکر روجه باشه یه تئوری پیدا کردم ام... نظرت چیه این تئوری منو بشنگید خوشحال میشم ام... اگه خوشحال نشدی چیه سعی میکنم خوشباید <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> خود خدا خوشحال میشه میشنید یه سریا مثلا در باب مسائل اجتماعی و مشکلات جامعه و نمیدونم اقتصادی و اینا که میشه یا حتی مسایل فرهنگی بیشتر میگن ما ایرونی ها مثلا اینجوری ما ایرونی مثلا آب زیاد مصرف میکنیم نه مثلا به موقع بیرون نمیذاریم ما کم کار میکنیم ما ایرونیا. چه میدونم هزار یک چیز دیگه چه توی گفتگو اینو این عبارتو تا حدودیاره این این من خیلی احمقانه است یعنی کسی که میگه ما یعنی جملهشو با ما شروع میکنه جمع میبنده آره دیگه یعنی یعنی داره یه تئوری مثلا جامعه شناسانه ارائه میده از خودش و این یا باید مثلا حداقل سه تا پیشتی جامعه شناسی داشته باشه و سه تا حساب در مورد جامعه شناسی نوشته باشه که مطرح شده باشه تو دنیا یعنی اینقدر شناخت داشته باشه از جوامع مختلف یا اینکه توی مثلا صد و چند تا کشور دیگه ما داریم 180 تا 90 تا خیلی داریم همین جاها سفر کرده باشه با مردم مثلا دیگر افتارشون رو قشنگ تحت نظر قرار داده باشه و دیده باشه که اونوش کار میکنن یه رفته رفتیگم باید تمامه که ایران این چیز دیده باشه که ببینم. همه دیده باشه این چجوری به خودش اجازه میده که یه حکم خودش دیده ما ایرانی ها این مشکل رو داریم ام. من فکر کنم دولت داره سوبسید میده به این آدم که اینا بهتونم برن سفر آه. و یه مقدر رو های دیگر رو ببینن. نه میشه. یه تعاملی ایجاد بشه شاید تغییر نظری ایجاد بشه در شما بره ببینه که مثلا فقط ما مثلا توف نمی کنیم کسی خیابون مثلا طرح میکنن، عربام میکنن نمیدونم آشغال تو خیابون مثلا دیگه هم رو زمین هست بوخ مثلا ما ایرونی ها بد راهندگی میکنیم بره مثلا هند ببینه هندی ها بد راهندگی میکنن یه همچین چیزایی نظر چیه؟ همچی منطقی پوشتش باشه ممکنه؟ من نمیدونم شاید به نظر چقدر آدم باید سفر کنه؟ اصلا سفر چیزی خوبیه؟ این همشهریتون قبل از شما داشت میگفت اطلاف وقته واقعا آره اطلاف وقت سفر؟ <متصف> نه نظر من آدم باید بل... آلا میگم بسیار سفر باید که تا پخته شود خامی آدم باید بسیار سفر کنه؟ نه، زندگی س... خودش یه سفره. از که شما با میشین شاید یه سفری داریم اون چاره؟ نه، سفر منظور ما همین سفر از یه شهر شکل... شهری به شهر دیگه یا یه آره کشف دیگه. همین آره دیگه. آره اینجوری. اون سفر ذهنی و اینا رو ما کای نداریم یا ام. سفری که شما هر چیزیو میتونی به یه شکلی سفر ببین به... چرا به اونم برمیگردیمه ولی الان به طور اخص سوال من اینه که آدم از یه شهر به یه شهر دیگه یا به کشور دیگه چقدر باید سفر کنه؟ من دوست دارم خودم آخر... آخرین سفرت به کجا بود؟ کی بود؟ من آخرین سفرم هم... تهران بود. چی گیرد اومد تو این سفر؟ م... که گیرم اومد؟ من... اول که یه آدرس که من رفتم اشتباه، یعنی جا شغل شده بود ولی خب مجبور شدم که کل تهرانو یه جورایی از شرق تا قبل برمون بیام ولی کن برای جایی دیدم که شو قبلا ندیده بودم زمانش نشده بود که برم ببینم چجایی مثلا دیدی تو تهران؟ ام... مثلا من تهران پاستارانو خیلی بالا آجنا رفته بودم اون پاستاران رفتم دیدم رفتم طرف دانشگاه اون تحقیقات اون بالا اون بالا عشفی اسپی بله. اونجا هم حالا نرفته بودم دوست داشتم برم ببینم دیدم بب... کار داشتم البته ولی خب عنوان یک چش میگن بازدید کنندم بهش نگاه میکردم ولی مثلا چیزی گیر اومد چیزی دیدی که سو بکنه یا نمی دانم به حال به عنوانی دست آور به حساب بیاات دست رو حساب بیاد برای کاری رفته بودم حالا همون که جوابش نیمده ولی کن امیدوارم که جواب مثبتی داشته باشه که گمانی دست دستاور از اون, سفر اون نه اون که حالا قسمت اون کاریشه میکنی ندارم اصلا از دیدن اون بالای پاسداران یا علوم تحقیقات نمیدونم از دیدن این منطقه که قبلا نیدی سفر به اون نقطه چی گیرد اومد چ منظره جدید من از من چشمه ها چیز جدید میبینه <تصفيق> یه منظره جدید میبینه بارش تال داره شاید همون موقع شاید چیلی الانم شاید الان هم که مثلا چیز خاصی دستگیرم شده باشه ولی وقتی چشمه اون چیز منظره جدید میبینه تفاقوت رو میبینه شاید تأثیر گذار باشه توی سهن آدم ممکنه تفسیرش برده هم مشخصه بود. من هم تو نفهمیدی این تاثیر محبوب و مفققه بود. خب، چیشم داره چش جدید میبینه. میتونه شما هر روزی منظره رو ببینی، یه راه بری، هم. یه مرسی رو تایی کنی، چیز جدیدی نوینی. فکر کنی همه دنیا یا همه اطراف همین شکلی. ولی، چه جدیدی میبینی، ساختمونه جدید میبینی، خیابونه جدید میبینی، آدمای های جدید رو میبینی، خب این این اینم شما معتقد بود که اینا رو میتونی از طریق کتاب و عکس و اینترنت و اینا ببینی. چه لزومی داره آدم بره سفر کنه؟ ارتباطی که آدم برقرار میکنه وقتی که یه جای خودشو قرار تو اون مکان هستید، با کتاب چطور بتونین تصور کنید که اگه من تو اون مکان بودم؟ ولی نمیتونید تصویر، ب... یعنی نمیتونی تصور کنید که اگه تو اون مکان بودی چه کاری انجام می‌دادی؟ <تصفيق> یا به چی توجه می‌کردی؟ به چی توجه میکردی آره چون اون اکسی رو که میبینی اون فیلم رو که میبینی یا اون کتابی هم که میخونی در حقیقت زاویه دیده اون نگیسند نگیسند بله. ولی تو اگر قرار بگیری ممکن از یه زاویه دیگه ببینی چیزی رو ببینی که اون ندیده ولی اون خوبی بود اتفاقا بعد در ادامشم شم اینم رفتم امه. بعد اونم خوب بود نظرم. و با دوستی صحبت کردم تو اون نمایشگاه و در ادامهشم با دوست خوبه دیگه صحبت کردیم. و دوستش توش اسمش نه نمیدونم نه نه اسم امکان درست سوم می‌کنه. <laughs> <تصفيق> اه. سفر خوبي بود. چتو چه چ تو, چه تو سری داری برای من که می‌خوام برم استانبول؟ استانبول رفتیت حالا؟ من نقاطی خیلی دوست دارم برم. چه توسیی من... داری بری من؟ لذت بری هر جا که دوست داریم ببینیم ببینیم خب این کار رو که میکنم و... <تصفيق> <تصفيق> خب بعضی نمی نمیدوش نمیشنم بعضی ها میران خرید فقط میکنه. مثلا بعضی فقط میران خرید میکنم تو... تو اگه بری میکنی؟ من فکر نکنم خرید خیلی برم بکنم میکن ولی جای تاریخی رو میبی می بیر... جای تاریخ دوست دارم تاریخچه دوست دارم ببینم و شهر رو ببینم کو پس کوچه شاید حالا آره من هم جای تاریخی رو دوست ندارم من هم دوستن برم شهر و کوچه پس کوچه و زندگی مردم امروز رو ببینم ام. جای تاریخچه دوست ندارین؟ نه من د... من خیلی به جای تاریخی علاقه ندارم خب همون کوچه پس کوچه ها هم تاریخ یه شهره جاهای تاریخی منظور به اون به اون مفهومی که میگن دیگه اون مساجد قدیمی و اون کاخهای قدیمی و اینا آره هر چیزی جزو تاریخه حالا تاریخ ده سال پیش تاریخ ده روز پیش تاریخ ده هزار سال پیش لزوما مثلا از پونصد سال به اون طرف که تاریخ حساب نمیشه درسته دیروز هم جزو تاریخه دیگه بععله تنگه بسفرام بریم تنگه بسفرام بریم قشنگه تو دو، تو دوست داری با تور سفر کنی یا خودت مثلا آزاد سفر کنی ام. تور یعنی لیدر داشته باشه بگه آره فلان جا بگه همه چی برنامه‌ریزی شده باشه بیان تو فرودگاه دنباله ببرن نشه خودم بیشتر سفر دوست خودت سفر. آزاد سفر. آزاد باشم اون جوری خودم دوست دارم برم اون مقدار زمانی که دوست دارم ورا اونجا بذارم شاید یه لحظه دوست دارم بشینم پای مثلا نمیدم مثلا تو استانبول پای دریا وشینه، سانیس شبرم پای دریا وشینه، یا هر جای دیگه. سفر خارجی رفتی یه بار؟ با بارده مسافرتی؟ نه، اون خیلی وقت. کجا رفتی؟ من دوبي. دوبي رفتی؟ خوب چیجی دواماتون سفر؟ خیلی سال فشی، وگره. دوره تو هم همه سنه هست مگه من اون زبه علاوه تازه رفتم تو بیوست سار سیرون <تصفح> رفتم <تصفح> تو سیرون رفتم تو بیوست سار هیچی اون سفر رفتم تو چرا دستاوردش بگم که مثلا بگم که اولا ناراحت شدم برای شهر خودم، برای کشور خودم که این همه نیروی انسانی، همه تاریخ، این همه چی ولی حالا ما باید اینجوری اینطور رو دندگی کنیم این الان تو واقعا یکی از کاندیده های گرفتن دلار مسافرتی هستی آها اه، تو <laughs> دو سه بار این دلار رو بگیری و دو سه جار رو بری ببینی این ناراحتید فروکش میکنه آره خب این هره ولی خب آره اینو میشه توسعه میشه چیز کرد جای دیگه هم رفتید و برای قراره باراش یعنی همشین یه کسی میگه که آدم باید اینقدر سفر کنه که به سهم آسمون همه جا یه رنگه این تو با این تئوری معافقی؟ آسمون همه جا یه رنگه نه آسمون هر جا رنگ خودشه رنگ خودشو داره آره فکر تو گپه پیش گفتین گفتم که های خودش داره شما گفتین یه جا به من بگو که زیبایی خودش ندشته باشه زیبایی خاصی خودشه نداشته باشه آره ولی منظور این حرفی نیستش که یه جای زیبایی خاصه خودشو نداره من جاز این اینکه آسممون همه جا یه رنگ یعنی اینکه شما یک وحدتی بین اونجایی که زندگی میکنی و آدماش با اونجایی که رفتی دیدی و آدماش میبینی که دیگه اون تفاوت یعنی عمیق تر میشی فراتر از اون تفاوت های ظاهریه زاهری. تکنولوژی و مدرنیت و مدرن بودن خیابون ها و ماشین ها و اینا میری نخو زهد... فرهنگی هم فرقه میونه البته یعنی ما فقط ظاهر نیست. فر... تفاوت فرهنگه میگم بستگی داره شما در چه سطحی با آدما ارتباط برقرار کنی از یه سطحی پایین تر دیگه بنی آدم یک تایی میشن دیگه شاید منظور اون کسی که این جمله رو گفته این بوده من نمیدونم منم هم نمیدونم به نظر من آسمون هر جا رنگی خودش داره به نظر من این سفر بعدیت کجاست سفر بعدی نمیدونم برنامه سفر نداری تو پیدا فعلا برنامه این سفری ندارم. تو که سفر سفر کردن و دوست داری چرا برنامه سفر نداری؟ الان م... زمان سفر نیست فا. زمانش نیست. نه. یعنی چی زمانش نیست؟ م... نمیدونم سفری که خودم بخوام برش برنامه ریزی بکنم به خاطر کاری نباشه، خاطر چیزی نباشه الان احساس کنم زمان سفرش نیستم حالا کارایی دارم که باید انجام ده نیمه کاره نمیده مگه نمیگه زندگی سفره اون سفر رو از اون سفر که شما میگفتین البته بر. خدا برگردیم به اون سفر رو برگردیم به کدوم سفر؟ زندگی سفره دیگه تو هم در مم. سفری الان خب خب از این سفرت بری ما بگو سفر جدید از کجا اومدی به کجا داری میری سفر جدید نمیدونم چی بگم هیچی ده شد سوال ولی شما آره خیلی خیلی سوال سخت مپرسیم آره سوال سخت بود دلار مسافرتی هم که نتونستی توضیح بدی خودم گفتم بعد تو اصفهان سفر میکنی؟ تو اصفهان ولده جایی از اصفهان هست که نیده باشی؟ جایی از اصفهان هست که نایده, نایده باشم بکنم قطعا حتما و خبرم داری که یه جایی هست دوست تو باشی ببینی؟ مم. منظورت جایی که بخوای ببینی چیه خاصی منظورتونه یا نه یه مثلا یه نمی‌دونم یه رستوران یا مثلا بفهم نمی‌کنه هر آه. چیه یه جایی که خاصی که مثلا بگی دوست دارم اینجوری برم ببینم سفر آره کنم به اونجا بله هست. سفر حتما نباید به 2000 کیلومتر اون طرفتر باشه که بله ولی بعضی دوستا فری دور برن تو سفر این دورو برد ارزاشون نمیکنه. مثلا من چند روز پیش یه سفر خوبی داشتیم چند ساعته هم. تو همین سوهان هم. با یه سری دوستان رفتیم اول خو؟ خیلی عالی بود لذت بردیم بعد از تاعت رفتیم توی کافه نشستیم هم. و صحبتی کردیم و برگشتیم به منزل ما. به منزلگاه باهمون یه جوری. ای. باز اینو تو سفر میدونی دیگه از خونه خارج شدی، رفتی یه, آره یه چیزای... خب کار جدید کردم دیگه. جدید کردی؟ آره، کار جدید کردم، جدید دیدم. دوستان جدید دیدی، یعنی با کسی هم دوست شدی؟ آره دیگه به واسطه یه نفر دیگه با دو نفر دیگه دوست شدم. <laughs> کاملاً مشخصات سفر رو داشته دیگه. آره. بسیار. هم شده دیگه. تو ذهن من جایی گرفته. سفر برای آدمو تغییر بده؟ سفر برای آدمو تغییر بده. میتونه تغییر بده. میتونه بایدی باید نداره. بایدی نداره. باید نداره. تو انتظار تا... خاصی داری از سفر؟ انتظار خاصه؟ یعنی چی؟ نمی‌دونم مثلا وقتی اسم سفر میاد یه یه حد و حدودو یه مشخصاتی داره که مثلا باید اون اون چیزا درش باشه تا بشه سفر یا نه هر چیزی سفره آه, کدوم سفره <تصفيق> مادر بردان کدوم سفره سفره شهر به شهر و اینها یا نه از سفری سفره خودمونی <تصفيق> هر سفری فهم نمی کنه آه. نه نه نظر شما چی کم شما جواب ب نظر من اینه که باهات خداافظی کنم کانوان چرا نمیدونم حس میکنم که تلفنمون داره سنگین میشه گفتهگو خیلی سنگین شده من خودم امروز خسته ای تو آره هم. منم هم که افزرددم امروز منم امروز اصلا حالا گفتم حالا هواتون چیه حالا هوایی ندشته حال هوام نداری؟ نه، شاید زن... من نیاز به یه سفر ذهنی داریم. آره، که از اینجایی که هستیم سفر کنیم. و اینکه چقدر هم تلاش کردیم، چند وقت تئاتر رفتیم، این طرف رفتیم ولی حال هوامون عوض نمیشه. چجوری فکر میکنی حال هوام عوض بشه؟ نمیدونم اه... یه پیشنهاد نوار بدیم ببینیم چه کارو یه نظری، یه فیش نوار پیشنهاد دبیم من فکر نمی کنم پیشنهادتون پیشنهادی برات داشته باشم خیلی حالا ها ناجوره آره ولی میدم میدم برو چیز برو ترمینال و یه بلیت بگیر و برو دیگه برو به یه سفر برو به یه سفر حتی یه روزه و ببین چی میشه و بیام اون وقت رو برای ما بگو خیلیم میتونه پیشنهاد خوبه میتونی مثلا یه روزه آقا آدم تا بره تموم میشه خودت همون اتوبوس سفر اگرسن آره. تو خود اون اتوبوس مسیرم خودش آره من یه نویسنده رو میشناسم که بعضی وقتا یه دونه بلیت قطار میگیره و توی قطار میشینه و یه دونه کتاب مینویسه تا برو برگرده یه بلیت طرفه قطار میگیره و توی قطار میرو برگرد یعنی استحان قطار داره درسته؟ بله بله آره میتونی یه بلیت طرفه بگیری به هر جا و اون تای مسیر پیاده نشی. <تصفيق> و تو خود ایسکا دوباره حالا یه مدت فکرم باید سفر کنی دیگه تا بره. ساعت قطار بعدی بشه و دوباره سوارشو بیاد اصلا میتونی از ایسکا راهنم خارج نشی دوست داری چیز سفری بکنی تنهایی دیگه اون بسمتشو من <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> عجب. به نظر تو توانا مشکل تنهایی داری خیلی مشکل سفر نیست <تصفح> بسیار خوب چیز دیگه هست خواهی به این سفر ما اضافه کنی ما،, ما،, ما فردا داریم مییم سفر واقعا؟ آره خیلی عالی چیزی می از استانبول برات بیارم؟ <تصفح> استانبولی <تصفح> نه جدی؟ استنبول عکس بگیرین عکس بگیرم آره باوش من خیلی عکاسی بلایت نیستم و عکاسی نمیکنم ولی تا جایی که بتونم اصلا عکس که میتونیم بگیریم عکاسی نمی‌کنم آره تا جایی که دوست داریم عکس بگیریم دوست دارم من تا مثلا حوصله این که یاد بگیرم این اینو چجوری باید تنظیم در حد این نه دیگه همین با بو... گوشی موبایل و اینو در همین حد هم. از آره استانبول چی دوست داریم ببینی؟ فقط زمانش محدود باشه خیلی کوتاه است چهار روزه من آره. من مردم و زندگی مردم و خیلی چیز خاصی مد نظرم نیست <تصفيق> ا من هر جا میرم خیلی دوست دارم غذاهاشو و رستورانای اونجا آره. رو تست بکنم ببینم مردم چی میخورن چجوری غذا میخورن بعد بعدم حالا هوای مردم و دیگه اصلا اینا چجوری زندگی میکنن فرقشون با ما ایرانیا چیه این 300 دلاری که گرفتیم مثلا آیا به هدف خودش برمیگرده یا نه یه همچین چیزایی درسته رستوران رستوران هر شهری من در من حالا اگه رستورانه خدا چه شیکه چه یکمی پایین درش بریم رستوران هر شهری فرهنگ اون شهرو نشون میده ولی شهرهای ایران حالا ما ایرانی ها که چون من این 300 گرفتم، رو گرفتم این جمله رو بگم. ولی اکثر شهرهایی تو ایران که من میرم رسطوران خیلی به هم شبیه شده یعنی منوها شبیه همه هم. حال و هوای رستوران هم خیلی شبیه همه یعنی رستورانی که خاص اون شهر شما ببینی خیلی کمه آره این هم شده یعنی منو همون جوجه کباب و کباب که مثلا شاید 70 درصد منوهاست و اون مابقیش غیر کبابی هم باز،, باز یه چیزی نیستش که مثلا شما بگی من توی مثلا ما زاهدان رفته بودیم چند وقت پیش یا خب با شما رفتیم باید. چند ماه پیش اون رستوران. حالا باز اون رستوران شهرزاد توی اسفحان میشه گفت که یه چیزی یه حالا هوای خاص اسفحان داشت ولی خیلی نادر پیدا میشه یه رستورانی یه جایی که حالا هوای خاص اون شهر رو داشته باشه خیلی کم شده نمیگم مثلا نیست ولی خیلی کمه آره اینا کم شده شاید نمیدونم شاید توی ایران اینجوره نمیدونم ما شاید چیل شدیم چه این حالت چشم و همچشمی توی رستوران داریم اونم اتفاق افتاده شاید حالی <تصحیح> <تصحیح> مثلا من الان توی سفر که بودم قرزون رد میشدم <تصحیح> مثلا رفتم قرزون توی رستوران <تصحیح> خب خب من دیدم که قضایی کباب بوجه بوجه بود، جوجه منسا... <تصفيق تصفيق> <تصفيق> رسمع... ها... بود، چی بود، چی بود، چی بود؟ بعد در یک قضاییی بود، سوشون تا باید نشینده بودم قیمنسا؟ اه بود؟ خیلی در سرانی بود، خیلی هم جای شلوقی هم بود، شیک هم بود طبقی رسمع... totally <تصفيق> دوم بود؟ آره آره اقبال نبود؟ اقبال بود، چرا، چرا بعد گفتم که خب این قیمه نسار چش تک دیدم یکی اونور داره میخوره یه جوری فکر کنم پولستم این چیه اصلا قیمه نسار گفتیم خب ما قیمه نسار می‌کنیم همه بقیه کباب و رنجور <تصفح> آخه من کباب جوجه افسانه میدونم آره آفرین قیمه نسار من اینجا میتونم بخورم خیلی <تصفح> <تصفح> خب من یک سال و نیم پیش تقریبا اونجا این غذا رو خوردم من خیلی وقت من میگم شما چه راست سه سال پیش بود ولی هنوز تو ذهنم یعنی اون رستوران من قیمه نسار خوردن تو ذهنم که من قیمه نسار خوردم Yeah, مثلا چرمون رفته بودم یا چندین بار رفتم اونجا مثلا خورش خلال معروفه خورشت خلال بهترین خلال نه خودشون میگن خلال خورشته خلال اون سه خورشته مثلا لپه سفارش با گوشت ولی لپه نداشته باشه به خلال بادوم داشته باشه و که سیاه که زرشک قرمزه هم که سیاه این تیپیه با برنج میخوارم میگم هر شهر قضاهای هر شهر نظر من یه نماده فرهنگی از ما شهره قضاها به نظر من خیلی مهمه تو تشهر حتی مثلا من که ما بودم رستورانی یه جایی میرفتم بعد وقتا که چیز بود یعنی مردم اون عام می اومدن اونجا خیلی شیک نبود که حالا بگیم که مثل مسافر میاد یا مثلا مردم میاد آره منم من دوست دارم اون رستوران رو فیدا کنم آره ولی مردم محلی می اومدن غذا می <تصفيق> من جالب بود این رستوران همیشه با غذاش بعضی‌ها دوست ندارن اول پیاز می‌ذاشت روی میکس <تصفيق> جالب بود که اینا پیاز خیلی می‌خوردن اما غذا <تصفيق> نون و پیاز می خیلی نو بر اینجاشون تو نون می خوردم با نون و خورش خورده آره فرهنگ آره، فرهنگ یعنی معلوم معلومه که این اینجا این که فرهنگ آره, آره دقیقا ولی شهر راوا آشونه آشونونه نشون میدم با رستورانش شاید ما تو ایران چیزم هم کپی خوب میکنیم حال ما چیکار می کنیم ما آره, آره. شبید سلامت با مثلا میریم فلانجا میبینیم مثلا نورش کم کرده چیکار کرده مثلا همون قضا رو داره سیر میکنه حالا باعت... وقتی باعت... سی دلار گرفتی و یه جایی آره... دیگم رفتی بهت به میگم که اه... ما سازی <تصفح> میکنیم یا نه همه اون کپیشتازی شدی میکنیم اما و... <تصفح> بستی میگم نمیدونم دیگه من حالا باید باعت... یه چند جایی دیگرم برم ببینم و ببینم که ساده کجا رفت این سفرشون خارج کشور من خیلی جان خیلی رفتیم اون سفر؟ نه خیلی نرفتم و فکرم نمی کنم که خیلی برم همین در حد چند تا کشور دور و بر دوست و همسایه دوست همسایه آره بسیار خوب خیلی ممنون که تماس گرفتیم ممنون خوشحال شدم قربونت تو منم همینطور فعلا خدا اینشالا که سفر خوبی داشته باشی ممنونم مرسی و برای ما از خوبی یاش بعد حتما بگی حتما حتما بعد یاشم حتما بگینام حتما حتما <تصفيق> ممنون مرسی سلام شبتون بخیر شب بخیر خدا نگرس خدا سلام سلامان محمودی هستم الو الو سلام سلام حال شما خوب هستم خیلی ممنون شما شبتون بخیر آقا سخانتی بفرمید خالا شما خوبید من محمودی هستم اه اه این بروتو برنامات می شرکت کنم توی زی دیده بودم انا فرصت داریم؟ بله شما از یه سالن خالی زنگ می زنین؟ صدا بگه صدا نه جای هستم صداتون اکو می کنه آها ادازه کنیم برم اینجایی که بهتر بشه صدا. لطف میکنیم خیلی شما اما صدای من اصلا نداری؟ صداتونو خیلی خوب دارم یعنی بیش بله. از حد خوبه یعنی خیلی بلنده و اشکالی نداره اگه جای دیگه‌ای ندارین همونجا صحبت آره درزی نادشغلی ندار. ندارین شما <تصفيق> استوری می‌زنید من از استان یزد واسه شما پیام می‌گیرم مهندس ولی یه کامنت هم براتون گذاشته بودم رو اولین بارم کتاب امکانتون رو خوندم که خیلی جذابه سایتتون شلون بعد که مطالب خوبتون نوشتهاتون دیدم یه جور احساس کردم که کار یه شکلی خاصی دارین یه دیزاین خاصی داشتهین که دوستشام برادب یه موضوعی سوال دارم کنم بله چیه اولش خواستم اولش کردم چه امکاناتی دوستم خوب. ببینید من یه جورایی مسیر همو گون کردم. یعنی تا یه نهتای تمرکزش دادیم، رشته یو خوندم، بیا خوندم. و الان چند سال بعد اونا داشتند دیس، بودم و بیالوقش اومدم. و بیشتر از شغل هست. از اون مسیرش دغدغه ام نیم چه مسیر رو انتخاب کنم دارم. و یه چیزی فارم که مهمه اینی که مثلاً نیروسی طبیعی می‌برم، مثلاً یه کاری که مثلا پولم پوش باشه بعد لذت هم بله کاملا متوجه هم. ولی و خب نمیدونم اون چیه میدونین چه نمیدونم چی احداقه برم چ علاقه بنی هم زیاده خب و چیزای چیز هستیش که اصلا چجوری بگم بهتون باشه کار درست حسابی نیستش اینجوری حالا چیه اون علاقه مندیتون خوبب کار علاقه من تهرانی خیلی علاقه دارم بعض مثلا ولی خب یک دوست دارم طرح یا مثلا من دوبلگر گویای دیگه صداوسیما رو خیلی دوست دارم. دوست دارم یعنی و گفتم اصلا من, من اون شغله باشم. می‌دونید؟ این سووانایی هم میشه علاقمو کارم دوست ندارم. می‌دونید چی میگم؟ وضعیت مالی پدرتون چجوریه؟ من پوله واسه منو بد نیست، من خودم خیلی دوست دارم استقلال داشته باشم. دوست دارم خودم یعنی روی خودم باشم، مستقل هستم. این خیلی برام مهمه. اول استقلال برام مهمه بیشتر از اون حالا درآمدش. باشه بذار شما سوالتون خیلی سخته من الان جوابشو ندارم بذارید آره ببینید من زمان... خیلی فورسیدم خیلی از خیلی اینکه الان از کجا به صنعتی علاقه داره خب چه مصریه قطعا الان بعد یه مصریه انتخاب کردن دیگه اصلا هم میدون ندرفت این مصریه که این انرژی آره این انرژی بذاره من بسن... بسن... بسن... اینجوری نیست آها شما گوش من چی میگم قطعا من میخوام یه مصریه انتخاب کنم و اینطور نظر من حسن کار اشتباهی شما فقط یه مسیر را کنیم و روش تمرکز کنیم ببین شما ملیم. وقتی با یه فرض غلط شروع میکنیم قایدتاً بقیه چیزایی که بهش میرسیم غلط میشه دیگه شما یه فرض خیلی سریع می، میگینش و ادامه داستان رو میریم ولی اونجا اون فرض غلطی که آدم باید یه مسیر رو بره کی گفته آدم باید یه مسیر رو بره؟ بیرون از نظر میگم شما بگید موافقید یا من نظرم اینه که اول آدم باید اگه بخواد یه مسئول انتخاب کنه خب یه وسیله که هم لذت بره هم توش بدد بخور باشه یک گوشی از این جامعه را از کاری مملکتو بگیره خب اینه که آدم اول استعداد و علاقهشو چون استعداد آدم متفاوته خب اما علاقه رو پیدا کنه بعد ببینه تو چه کاری میتونه موفقتر باشه یعنی بدلی چه کاری میخوره تو این دنیا چون هر به هر آدم یه رسالتی داره تو این دنیا درسته و تو همون ن سرمایهگذاری کنه یه آدم تاپ بشه یه آدم یه برجسته بشه متوجه سج من که متجمع ولی من بله. حرفتون قبول ندارم به شما ای این چیزی که بلان قبول ندارین؟ نه, نه،, نه، هیچ کدوم از چیزهایی که گفتین رو قبول ام. ندارم همون‌طور که گفتم می‌گم خاطرن اصلا واسه تماس گرفتم آره یعنی یعنی اینی که آدم باید، این اینکه هر آدمی رسالتی داره رو قبول ندارم این که آدم باید یه مسیر رو انتخاب کنه که درش استعداد داره و استعدادش رو اول پیدا بکنه و بعد بره تو اون مسیر و تو اون مسیر موفق بشه و تاپ بشه اونم قبول ندارم بزید. اصلا دید من به زندگی اینجوری نیست آها، خودم چه گم شده تو رو مثلا، من آن چیکاستم واقعا رو هم گم کردم. من یه آدم هستم که آره من به شدت درونگراام. در آدمای دوربر و هر ثاوب کتابا رو صد و هشت. m مثل باد نمی‌مونم اینور اونور. یعنی با هر ورودی که به سرافی میرم، حقیقت راهمو گم کردم. یعنی هر آدم به سبب این است ولی راه رو گم کردم، بزنید. انرژی تو چه مصرفی خرج کنم؟ شما راهی ندارین که گمش کرده باشین. را... یعنی چی راه همو گم کردم، راهمو گم کردم؟ معنیش اینه که شما یه راهی داشتین و حالا گمش کردین و دوباره ممکنه پیداش بکنین ببینید شما اصلاً, اصلا جملاتتون انگار از یه جایی دارین میخونین یه ذره آرامشتون حفظ کنین بذر من در بازه زمانی اصلا شما بلی. راهی ندارین که گم کرده باشین بلی. و زندگی بکنید. شما سفر میکنید؟ نه شدن. اصلا سفر نمیکن ولی زیاد جایی دور زیاد رفتم زندگی کردم. مثلا من و یه شهرستان بودم، جای دور. باز فوق لیسانستم یه شهرستون، الان یه علاقم یه شهرستان دیگه هستم، زیادی من اونور بر رفتم. خب این اینورون بر رفتن ها چی چی به دستتون داده؟ چی؟ دست خب من به آدمای زیاد معاشرت کردم. همه جو همه قش آدمی رو دیدم. میدونی چی میگم؟ بعد یه جوریام می‌خوام ببینم اصلاً یه جوریام هم همه جو درامو میزنه. اصلا از آدمای هیچی باهرمه که حال نمیکنم با آدما هیچ حال, آدم هیچ حال کنید. نه نه نه ولی میم احساس میکنم تو خود پایتخت هنوز نمیدونم زیاد تهران مثلا در حدی یک دو بار مثلا مسافرت اومدم ولی دوست دارم مثلا آدمای اونجا مثلا ای ای خب این معاشرتی داشته باشم ولی خب نروستم ولی اینکه میگی مسافرت میکنید زیاد با آدمای زیاد اثرش یا اثر من زیاد میشه هر و هر فرهنگی... داره؟ اینکه با هر قشقی و هر فرهنگی شما معاشرت کردین این نتیجه بهتون یعنی به این نتیجه رسیدین که باهوش حال نمی‌کنید. آقا فرمادم ایران حال نمی‌کنم من خیلی جواب بودم ولی کلم با حال نمی‌کنم باهوشو نه یعنی حال نمی نمی با اشان. چی حال دبین... نمی‌کنین باهوش چی يعني... ندارن یا چی دارن ببینه... جزئیاتون میکنن. آقا ببینید من یه کارو ما فهم کنه همه چه فهم میکنن که یه درسه مثلا من اجازه بگیرم اصلا دخترا ازدواجشو برا سر خود زندگی شون با بچه‌دار بشن و زندگی کنن در پیل بشم این تموم شود به بچه ها رو پرستم من این روز دوست ندارم این یعنی همه چیز همه درماره که صرف همین مدرکی بگیرم و تموم شود بگیرم من یک خلوشت بلنم فرمان بگوه باشه. این حسی که میزنم ولی مثلا یه سری آدم هایی دوست دارم دارم خاص باشم بینید یعنی اینجوری که وقتی که مردم اسمی ازم بمردم مستواجه این؟ آه. مثلا ما تو ریازید یه خانم هست یه بخ... خانم نوتر خب یه امیدی نوتیشن دانشمن عزیزام بوده که خب این سوال‌های سال دیگه هستش رو ریاضی میمونه و اونم بیشتر وقت اسفط ای ال کرده من یه یعنی چه زندگی رو دوست دارم میدونین که درس خونده تلاش کرده اسم از خودش تو دنیا گذشته هم که اسمش تو تاریخ مونده ندیه یه نظریه مثل, مثل استیوجو انیشتاین آره ولی اون خانم <تصفح> <تصفح> که سن شما بوده که هدفش این نبوده خاص بشه و اسمی از خودش بجا بزاره بذاره که اون آدم وقتی به سن شما بوده داشته زندگیش رو احتمالا از ریاضیات و سرکل زدن با ریاضیات لذت میبرده اون کارو رو بیشتر انجام میداده. خب من همین دارم میگم من خواهم میگم که یه مسیر رو انتخاب کنم کار که بگم لذت بگم خب توی خاص بشم آخه, آخه اینجوری نیست یعنی خ... که من نمیتفهم هستن شمایی زرد نمیتونم چی بایدتون باید باید بگم یعنی <زمان> <عزارت> چی توی اون خاص بشم ببین شما الان هیچ چیزی اونقدر بهتون لذت نمیده که برش تمرکز بکنین و اون رو تکرار بکنین اینجوری که دارین میگین هیچ علاقه آه. خاصی الان ندارین همه چی میزنه آره. آره آره در عین حال اینکه برونگرا هستین به شدت به شدت ولی بلد. با هیچ آدمی هم عمیق‌تر از یه نتونستین ارتباط برقرار بکنین چون فکر میکنیم که همه های مشکلاتی بلد. دارن و که بندزی کافی خوب نیستن برای ارتباط داشتن آره درسته شما, درست شما میدونین دلار مسافرتی برای چی میدن؟ ببینم آخه به چه ندارم صفا چه راهی که داد است اشخاص این زمینه خب من توضیح میدم براتون ببینید هر کسی که سفر خارجی میخواد بره بهش 300 دلار دلار مسافرتی میدن که تقریبا هر دلار 500 تومان از بازار آزاد ارزون تره یعنی یه سوبسیدی دولت میده برای دلار مسافرتی برای کسایی که سفر خارج از کشور میکنن بله به نظر شما این فلسفش چی میتونه باشه یه سیاست پشتشه بعد ها فکر کنم هندونم حفش اینه که مزوع چیزی را رو از کشور میخواند دولت میخواد محدیگتی از خا توی میخافت خارجی چرا باید دولتی کشوری سبسید بده که تشویق بکنه شهرون خودش رو که برن سفر خارجی من شنیدم که خیلی از کشور را دولتشون سبسید میده بر اینکه توریست جذب بکنن چون در داره ولی چرا یه دولتی باید میلیاردها هزینه بکنه برای اینکه ملت خواهد. خودش برن کشورهای خارجی رو ببینن؟ نمی‌دونم شاید دلیلش این باشه که ملت دوست برن به طرف کشور یا دوستا مسافرت خارجی برن بعد شاید دولت هم بخواد از اینو برسته نمی‌دونم ولی من اطلاع ندارم چیزی نمی‌تونم بگم. نه از منطقتون استفاده کنید من می‌خوام شما از منطقتون استفاده بکنین و اه. شما ریاضی خوندین دیگه درسه؟ بله ریاضیات. من افکر اصلا آنف کندم و ولی صرف این که موضوعی که بگیرم علاقه نداشتم به ریاضی حساب و کتاب هم سایی نزایشه نه حساب و کتاب برقایی یه منطقی ریاضیات دیگه درست دارست خب چه منطقی میتونه پشت باشه که یه دولتی سوپسید ده که دیدونید من اصلا سوپسید چیزی درست منطق قطعا تا کارید دولتی ما وجود نداره چیزی که از بریم میبینیم خب قطعا ولی خب اینم قطعا اگر این چیزی ایجاد میکنه مثل حالت سازمان و که مثلا میاد دفترچه یا دارشک آزاده گیرون کرد میکنه که به یه پولی برسه اینم احساس میکنم که هم بوی پول از میاد یعنی یه درامدی داره دولت در... از آره. آره. رو دلار آره دیدین حتما یه, یه براش داره دیدی تو زمینه آره و همون که حقوق یعنی توش وجود ندارن که بخواد به کسی حال بده نه این نیستش حتماع اون بالای مثل فاطمه نوشده که اصلا نونی میخوره که اینجوری هستش شما شما دوست داشتین به جای ریاضی چی میخوندین من مثلا نویسنده باشم ولی کدا کدا هم چیزایی که دارم مثلا میگم ولی اصلا پول توش نیست خب چرا پول توش, توش نیست؟, نیست پول خیلی تو نویسندگی هست تو نویسندگی یه کتابو چاپ کنید بعد کلا بلندگی کنه کلی هزینه کنید که مثلا کتاب فاک کنید بعد بعد حتما تو هر کاری که ما می‌گم برای که دستتون رو بگیره مثلا با باه انتشاراتی خوب آشنا بشید و کسی که کار کرده قبلا مثلا معرفتون باشه میدونی منظورم استفاده کردن از خودش بوده دارد. یعنی شما دنبال یه کاری میگردیم که سختی هم نداشته باشه هم که سختی نداشته باشه ولی مسئولیت یه کار چی تو ایران اصلا مثل جای دیگه نیست نه نویستندگی... تو ایران من اینو اولین باری که میشنوم. نویسندنده ها که خیلی قابل احترام و مردم بهشون احترام میذارن چرا چیپ خب نویسندگی چی بسن... من مین کتاب بنییسسم بعد باعت... خ من کار خوبی درآمد داشته باشه دیگه دوی نویس زمان زیادی میز که شما مطرح بشید و کتوات بیام بخره میدونه آره ولی دیگه. کسی که به یه کاری علاقه داره که خیلی در ابتدا به این چیزها فکر نمیکنه که یعنی آره خاله یتیدم بگم من اومدم آی این به حقیقت علاقم هم هست دنبال مالشم میخوام برم خب در یه زمانی که اول یه پولی برسم اول یه خورده بتونم خودم بگیرم چون من هنوز چیز ما بیشتری دادم تو کار بعدش بعد درس نمیخوام چیز ما چه دادم تو کار اینه که الان یه خورده اونشم اقتصادی و مال کل چاله گستر ده میشه از که اول اون پوله برسم بعد به اخر... چه پو... چه بر پول چه چقدر پول میواد بهش برسه عددی دارین برای خودتون فاست. آره آره فقط در که بتونم دستم تو جب پدرم نباشه و خرج بزمارم رو بدم بقیه پلاوان همیشه هم میگم هر چی که بخواه هسته که مبابی بر این در بیارم این باته بر این همه میدم به مثلا بغیر کودک میدم اون, مثلا اون میزانی که شما رو مستقل میکنه از جیب پدرتون چه عددیه؟ همه حقوق کار حقوق اداره کار و دیمه 600 خوردهی 600 تومن یعنی شما الان مشکلتون ماهی 600 هزار تومن نه که مشکل هم این باشه ببینید من یعنی, مام... یعنی دوست داریم یه کاری باشه که این حقوق رو به شما بده دیگه یه منظور مشکل شما... مشکل شما پیدا کردن یه همچین کاریه نه نه پیدا آره کردن پیدا کار که بهش علاقه داشته باشم ولی بهش علاقه هم داشته باشین در این حال آره. از اول علاقه هستی که خب این از مر... کارش زیاده کار زیاده ولی شما علاقه نداریم خب از اه... اه... مسالتون اینجا سخت میشه فهمیدم مسئله شما چیه مسئله اینه که می‌خواید با انجام کاری که بهش علاقه داریم و بهش علاقه بجز نویسندگی به چی علاقه باره. داریم من طراحی دوست دارم آرایشگری دوست دارم من نمی‌دونم هیچ کدوم چی تو بازار خوانه که بازار کار داره و خیلی ببینید چراست پایین منو می‌دونید کاری که من دوست دارم کاری سطح بالا با چراسی نیست و هنر خیلی برای من خب ازیر جلی واسه که من همون برم مداری تو رویس دانشگاه برم تذبیس کنم خوب من دانشگاه هم داشتم تو داشته ولی خوب اصلا احساس کردم دوست ندارم چون بچه ها اصلا بیمیل بیالاقه بودن خیلی جالب نمید تو دانشگاه اصلا دانشگاه هم بیخود بود اینه که فقط باستد فوقالیسانس استاد دانشگاه قول کنمو داشتم کنار اصلا نمیدونم این درست می کنم بعد یه من میگم که تو که هفت سال درس خوندی این هم از دانشگاه دولتی خونی اومدی که خوب بوده ای هم زحمت کشیدی چون سخت بود واقعا آلمو بشدین میخواد بریم اصلا دوباره این کارا من بهشون میگم که نه من اصلا علاقم ندیدم شما اگه اینو انتخاب کنی تا آخر عمرت بعد پای تخته باشی ریاضت تلف کن من رو دوست ندارم درآمدش هم خوبه مثلا من تایپ خصوصیام انجام میدم درآمدش خوب اصلا ساعتی 30 تومان میگیرم ولی خب علاقه من این کار نیست که مثلا خاص باشه من خاص باشه چون ور اسخبارتی یه که خاص باشه مثلا اسم و آوازه چی بشه میشه استاد دانشگاه تاثیری در حیات你们 آره ولی ببینید یک اولین قدم خاص بودن و خاص شدن اینه که اصلا به این موضوع فکر نکنید خاص بودن یه چیز ثانویه است یه چیزیه که به شکل در حقیقت ساید افکت به شکل اثر جانبی حاصل میشه بدون اینکه شما بفهمین که این اتفاق افتاد. آره،, آره، هیچی در, در, در مسیر خاص شدن که قدم نمیذاره که در به واسطه اینکه دومین به صلاح نیازمندی خاص بودن و خاص شدن اینه که شما ریسک بپذیرین. شما میخوان یک یک گارانتی و یه امنیتی داشته باشین، یه حاشیه امنی داشته باشین آره، نظر آره. مالی. آره، این خو... همه کسایی که خاص بودن و خاص شدن ریسکای بزرگی کردن تو زندگیشون و شما اصلا اینجوری ام. که بوش میاد آره. خیلی اهل ریس خیلی هستیم افتاد هستم اصلا به هیچ ور همشه تو تو ساعی خب پس هرگز شما اه، یعنی اه، به نظر من این خاص بودن و خاص شدنو رو ولش کنیم شاید یه روزی شانستون رد و خواستم شدیم ولی این،, این چیزی که من از شما میشنوم خیلی پتانسیل خاص شدن و بخصوص در کوتاه مدت این بورو نمیده به بزف اینکه خیلی خیلی شما کار دارین از این بابت که ببخشید که با این ادبیات بهتون میگم. خواهش می‌کنم ولی به نظر میاد که شما توهمهای خیلی سنگینی در زمینه علاقه و کار و علاقه به اون کاری که میکنین و بعد پولی که ازش حاصل میشه کلا همه چیزو چپکی متوهمه شدین و اینجوری نیست دلعه. عالم واقع اینجوری نیست. اینو ذرا صادقانه برادر و برادرانه صحبت من نمی‌شناسمم نه. ولی من اصلاً تو محل کارم هم آدم‌هاش یه زندگی خیلی معمولی دارم متوجه این اصلا میرم ساعت بعد ساعت دو صبح ساعت ساعت میکنم. 2 ساعت کار هم میشه برای همون 600 تومنه. خب یه دارم، اصلاً هم هستم ولی ازش از از لذت نمی‌دارم. مثلا من باید, باید, باید کتاب بخونم بیشتر، می کنم می‌خونم. حالا تو چه زمینه‌ای؟ من ادایدم شماها اصلا از طرف خیلی زیاده. اصلا چیکارش رو شروع کنم من یه زمانی که مسئولندگی راه خودرو بودم اصلا خیلی اصلا یه فاکتور زدن قضیه شه مثلا ماشین ماشین های سنگین بود بعد از اونم در همین شرکت بازرگانی مدیر فروش هستم فوق خیلی خوب فروشنده هستم ارتباط با آدم‌ها رو خیلی علاقه دارم ولی باز بازاریابی هم حالت بازاریابی تلفن داره باز بازاریابی اپ ایران جیات فیزیکی نداره من من تنها پیشنهادی که بهتون میکنم اینه که فعلا روزا کار بکنید و شبا به علاقتون بپردازین اگه مم. به نویسندگی علاقه دارین یه کار همین کار رو میکنم بیدید من کاری ترابی شبا انجام میدم کاری که حال پول خوب هم داره ولی خب میگم میموندن آخر آدم این راهو به را بره تر چیه میدونی اگه 10 سال بعدش رو ببینم که مثلا یه روز نویسندگی مطرح بشم یا مثلا یه تراب خوب بشم. خب اصلا الان کلا شما رو وقت نشد ده سال دیگه رو فقط یه فال بینی بهتون بگه دیگه از دانش امکانش بشری یا هیچ کسی نمیتونه در در سال دیگه چی میشه نه ببین مثلا من خلاص بزنم مثلا این آوا ده ساله ببینم مثلا من مثلا یه روز باید دانشکده فستان اون جایی باشم یا ده سال دیگه بعد دوست دارم این که انتخاب کنم ادامه بدم ادامه تحصیل بدم دست بخونم سوشال با سوا بشم یا چی میگم مثلا من, من مبلغ بی هم چرا شما برای هدف گذاری به من زنگ زدید من ببینم خیلی بله بله اگه اگر... نوشته های منو خوندین دقیقا اله. تغازاتون 180 درجه یعنی میدونین که من چه چیزی رو دارم تبدیل میکنم دوید آره یه چیز بودم شما یکه حالت تاریفتون نوشته بودیم از زندگیتون که اول دانشپر شاییست بودیم بعد رفتیم توی یه شرکتی با دوره مشرکتن رو برش کردیم با دوره دیگه میگم شما کسی مسئله مستقیم رو نرفتیم وقی خود ارنما من, من، مشکل اینه که منم گفتم بو این دیدی که مثلا شما دارین زندگی من عذاب که تا تو کامرسال و این فکشت می‌کنم خودش از تفاوت فرهنگی باشه نیوچ تفری دارید این قضیه کار ندارم می‌گم شما این این جمله رو دیگه به کار نبرین جملتون اشتباهه راهی وجود نداره که شما گم کرده باشین خب پس من چه کاری ببرم ببینید هر،, هر کاری که فکر می‌کنین موجود منطقی فعلا یه درآمدی بهتون میده اصلا به علاوه‌داشتن بهش فکر نکنین چرا باید یه نفر بیاد بابت علاقه شما به شما پول بده؟ ببینید چه مشکلی از اون بابا میتونین حل بکنین چه ارزش و ارزش افسودهی برای اون آدم میتونین ایجاد بکنین که مایی سر از ارتومان داره به شما میده و علاقتون هم فعلا به شکل جانبی بپردازین این چیزی که من میتونم بهتون بگم اصلا نه لزومی داره و نه امکان داره که شما توی این محدد خواهید علاقتون رو به یعنی اونم به این شکل و به این فرضیات و با این برداشت از علاقه برید اون کاری که میکنید سعی کنید بهش علاقه من بشین فرقی هم نمیکنه که تدریس ریاضیات یا کار توی شرکت بازرگانی نمیدونم یا اینکه چه میدونم آرایشگری اون شصتا مهم تا زمانی که به اون وزن میدین و یه پیش فرضی داریم که من به این علاقه دارم به اون علاقه ندارم و میخوام خاص بشم بزه. خودتون دارین مسئلتون رو سخت میکنین تا اینکه وقتی میگین که من راهم و گم کردم باید پیدا کنم یه مسئله غیرقابل حلی میذارین که هیچ ریاضیدانی نمیتونه حلش بکنه اصلا اینجوری نیست زندگی یه ذره ریلاکس کین و زندگیتون رو بکنین آره اما تو شما گفتید این خیلی بودمپ قرار بله من نگم دیگه تو خیلی سخت میگیری زندگی رو آ ببین من برام خیلی مهمه که وقتی دارن میرم وقتی پ سرم نگاه کردم تو جوری زندگی کردم بین من قراران مهمه که وقتی دارم می میرم خوشال هم از لح نه همتی نداره اینهمیت ها رو تو ذهن خودتون سعی کنیم کم کم به تزجییح بندازین شما وقتی که بمیرین به احتمال خیلی زیاد نه اسمی از شما به جا میمونه، نه اهمیتی خواهید داشت بعدش. منم همین طور. بله. می داشته باشم اون اهمیتارو، مثل استیو جابز. ببینید استیو جابز هم بعید میدونم دو سه سال دیگه اسمی ازش باقی مونده باشه و اهمیتی داشته باشه. یعنی مونه؟ پس ازمونه چه نه. نه. نه. نه، فکر می نه اینجوری نیست. اینجوری نیست اصلا. حالا شاید بعد از پنج سال، ولی بعد از سال، چی؟ شاید نه شرکت اپل مونده باشه و نه محصولاتش شده دیگه کسی استفاده بکنه و نه اسمی عویسیت جابز شما دارین مثلا زندگی رو توی یه بازه 20 -30 ساله ای که خودتون یادتون میاد میبینین یه ذره اینو بزرگترش بکنین توی مثلا ده هزار سال گذشته توی دیویس هزار سال گذشته بشریت رو ببینید. شما ام. یه نقطه این یه, یه،, یه بندازه گرد و خاک هستین که الان اینجا وجود داره و بعدم وجود نخواهید داشت. هیچ هم. اهمیتی شما وجودتون در این دنیا از یه بود نداره از یه بودم خیلی داره شما یه انسانه خیلی میتونید تاثیرگذار باشید آره، به شرطی که در لحظه در امروز زندگی کنید و خیلی ما شک... تمام پتانسیلمو تمام فرصتی که بهم توی این زندگی داده شده رو استفاده کنم وقتی منم با خیال راحت اینجوری نیست میگم اینجوری نیست که شما در این مسئله رو اشتباه مطرح میکن و هم. وقتی که صورت مسئله رو اشتباه مطرح میکنیم جواب درستی هم نمیگیریم این نظر همه اینجوری این نیست اشتاسان ریلکس کنین در لحظه زندگی کنین اگر اه، اه، بتونید اه، اه، میگم این, این منیت رو بذارین کنار که من تمام پتانسیلم میخوام خواست بشم خواستم من اینجوریم نه شما بگه آدم این مثل همه آدم های دیگه حالا شاید توی نمیخوام باشم من، نمیخوام من اصلا ندارم. خود خب بابت این من فکر کنم راز ناهنجاری در پیش رو خواهید داشت ازینه گزافی بابتش خهید فرض آره یکی از خوابام که ازم دارم میذارم مهمندر دیگه من چیکار کار واسه شما حالا خودتون چی مد نظرتونه من اصلا چیزی لازم نیست که فردا نچادر بخند ببینید چه جوری زندگی کرده باشه راضی هستید چی مد نظرتون خودتون چی نظر من تو لحظه زندگی میکنید فقط تا جایی که بتونم آره من من نه چیزی از مهمه که به جا بمونه نه مشهور بشم بله. و میدونم که اعتمادزیی اینجوری نمیشه آه. و اون خبره که میگم شما فکر میکنید نیست اگر نیست. بتونید یه ذره گستردهتر از این 20 کیلومتر دوروبر خودتون و 23 سال دوروبر خودتون ببینین یه ذره اه. زندگی و جهان رو گستردهتر از اون چیزی که چه میبینه می‌بینه ببینید بعد اون وقت به ناچیز بودن خودتون پی می‌برید و وقتی به ناچیز بودن خودتون پی ببرین می‌تونید باور بکنید، اون وقت شاید یه ذره راحت‌تر بتونید تأثیر بذارید راحت‌تر بتونید از پتانسییلاتون استفاده بکنید و راحت‌تر بتونید به چیزی علاقمند بشین علاقتون تمرین بکنید این کارا رو شاید بیشتر بتونید بکنید ولی تا زمانی که فیکس هستین و روی اون توهومایی که تو ذهنتون به صدا فرود اومده راه به جایی نمیبرید متأسفم. ولی گفتن سعادت یعنی شما به حال این مسیر شما هر چه من بگم احتمالا شما نمیشنوید و باید این مسیر ناهمبار رو برید تا شاید یه روزی سرتون به سنگ بخوره و بفهمید دیگه من مشتاق کاری. منم از همین میترسم ببین مثلا من درسم رو که خوندم حالا واقعاً طفیلیم چون هیچ علاقه نشدم یعنی دادم. آره اینو این اولین سنگه که خورده تو سر خب اینه اینه بخاطر این میشه همون که میترسم من برا وقت زمان به خاطر اینکه این چیزی که من از شما میشنومم هر چیز دیگه‌ای هم که میخوندید بهش علاقه من نمیشودید و من مطمئنم اگر 20 سال دیگه برگردید و با همون آدمایی که تا به امروز صحبت کردین و میگین که من صحبت اینا و همنشینی باشون برام جذاب نبود و احساس می‌کنم اینا حال با حال نیستن یا حال نمی‌کنم باهاشون دره. شاید بسیار باحال پیدا کنید اینا رو و بسیار لذت ببرید از معاشرت با اینا اینکه شما ام. از چیزی الان لذت نمیبرید مشکل در درون شماست نه در اونا و این این این نشان که شما به رشد کافی نرسیدید که بتونید به اندازه کافی با محیطتون با کارتون با علایقتون ارتباط برقرار بکنید و و اینم اینم ای نیست مگر اینکه اینو توسعهش بدین یاد بگیرین در این مسیر رشد برین هیچ فرمول یه شبه‌ای نداره یعنی با گفتن یه جمله شما این مسئلهتون حل نمیشه شما یه, یه مسیری در پیش دارین که باید بریم دیگه حالا نمیدونم پنج سال، ده سال، بیست سال، سی سال که به تدریج بتونید بر این مشکلات ذهنی که دارین ازشون گذر بکنید من اینجوری میبینم قضیه رو و خود منم شاید در سال 15 سال پیش 90 درصد این چیزایی که الان میگین و این چالش‌ها رو داشتم <تصفيق> الان کمتر شده چالش هم یه دیگه ای شده. آره خب که نام تاثیری بر اشکاله. حالا تاثیری اشکاله ولی توی تاثیرش خیلی روزه هم اندردگانم میکنه. یادم میاد ماشین که های خیلی زیاد میخونم حالا آدمای بازرگی که عزت مثلا مثل مثلاً آنتونی رابین یا برگنتلیسی و اینا، اینه که توی هم کتاب توافق خیلی, خیلی گام میشم <تصفيق> بهتر میگم گم بهتر نخونید اینکه رو فایدهایی نداره برای شما ما هم همین کار زندگیتون رو بکنید. همون خود مسیر شما همونه یعنی اصلا هیچ چیز دیگه ای نسیه گومش کرده باشید به پیداش بکنید این خاص و خاص بودن و خاص شدن رو کلا سعی کنید از ذهنتون خارج بکنید بعد کم کم شاید یه روزی خواست بشین دیگه <تصفيق> خب باشه نساییم آنگرسیم این ممنون دو که تموتی خیلی پرچونه هستم آیش میکنم خوشهای شدم وقتی تونم خیلی نوت کردیم من امید روز نمیشتای خوبیتون واقعا دیدگاه نشانی داریم به زندگی و خواست بگم شما خاص هستیم اتفاقا با من دیگاه خواست میداریم یا حتی که من خواستیم حداقل در این گفته گوشه خواستم که تاثیر زیادی رو شما نداشتی ولی خب الان امکان نداره نه بله شوخی اگر احترام به تاثیر خیلی شو جا شو جا اثری یا مثلاً خلاف یه جای جریان جایی آب پرست میزنیم شاید من جوری بوانم مت میکنم و حرف میزنم امروز نیم میزنم ولی اون که خودمون بوانم و چلانش جوری است و نه زن مشتاق میشوم که تو زندگی چیزهایی درکی تو زندگی چیز ادماهای دیگه تسریع داره برای من حداقل نمیذاره به خاطر هر من جذبشون آب و بلکه تابتشون خ... خاص پیش میکنیم دیگه اینجا بی پروا جسد و اینجوری هست نمیدونم حالا نمیدونم. خودم نمیدونم خود. ممنون دو بخش الو الو سلام سلام خوب هستی؟ خیلی ممنون من زیای هستم چطوری؟ خیلی ممنون خوبیم؟ خیلی ممنون چه خبر ها؟ سلامتی چمپیدای امیر محمد دیگه همونطور هم که گفت فاز درس و تست و کنکور هستیم درس و تست و کنکور؟ همونه شد؟ نه شروع شده فکر کردم رفتی سفر جان؟ فکر کردم سفر رفته بودی سفر؟ نه از کجا فهمید؟ همین چون خبری ازت نبود گفتم چه سفری نه ما موضوع طبعا. امروزمون سفره سفر سفر خوب برای جذاب این موضوع سفر چیز جالبی ولی سفر به نظرتون تنهایی بهتره یا با کسی باشین به نظر من تنهایی بهتره چرا چرا چون آزادی عمل داری دیگه میتونی هر جا خواستی بری هر جا خواستی بیشتر بمونی بیشتر ببینی ولی اگه یه مشکلی بر... زیاد دیگه خب به حال هر هر هر یه معایبی هم داره دیگه. درسته. به نظر تو آدم باید زیاد سفر کنه یا کم سفر کنه؟ چه جوریه؟ راستش من زیاد سفر نکردم برای همین نمیتونم هم نظر بدم کجاها دوست داری بری؟ کجاها؟ چیزی مثلا مد نظر تست؟ آرزویی داری برای سفر کردن یا نه؟ اصلا خیلی بهش فکر نمی‌کنی؟ سفر، مثلا که سفر به مثلا آمریکا یکی یک از دانشگاهاش به خاطر دانشگاه یا به خاطر سفر؟ برای دیدن بخاطر آمریکا. به خاطر دیدن آمریکا. ولی اصل، سفر اصل نیست. سفر اصل اون دانشگاه هست. دانشگاه اصله. اصله. ولی سفر خودم دوست دارم ولی فرصتش پیش نیومده. ایران همین عملت... سفر نکردی حالا؟ ایران سفر کردم ولی حالا یز جا که مشهد مشهد من زیاد رفتم جای دیگه زیاد نرفتم مشهد زیاد رفتی؟ بله خب چی از مشهد میتونی برای ما بگی؟ چی ما... تو مشهد که اومده؟ مشهد فکر میکنم هم یه جای زیارتیه هم یه جای سیاحتیه. جای دیدنی خوبی داره چه جاهایی تو هم... مشهد دیدی به که لذت بردی چیزهایی که لذت بردم همین که تو شهر میگشتم خودش برام لذت بود همین که شهر جدید می دیدم آخوا تو یعز خیلی اه، کم میرن بیرون یعنی خیابوناش خیلی خلبته یعنی اگر پیاده تو خیابون بریم مثل شهر عرباه یعنی اگر پارج <laughs> از یعز برم خیلی برای یعزی جالبه اینکه خیابونا شلوغه برای یزدی یا جالبه درسته؟ بله یا تفاوتی هم هست بین خیابونای مشهد و خیابونایی های یزد به اون شلوغی بینشون مردمش هم فکر میکنم که گرم ترستن این احساسو دارم این, این يعني... گرمی خودشو کجا نشون میده؟ یعنی فکر میکنم که بیشتر لبخند بزنن شاد ترستن شاد ترستن بله دیگه چه چیز مشهد توجه تو جلب کرد؟ دیگه چیز خاصی نبود چون من زیاد سفر نکردم تو خود گزدم سفر نمی از این خیابون به اون خیابون بری کوچه ای که قبلا یه خونه ای که قبلا نهیدی بگیرم مگن سفر؟ نمیگن سفر حتما باید به یه شهر دیگه باشه باید یکم فاصله زیاد بشه فصلت چقدر بیشتر باشه میشه سفر ام فاصله ام فاصله مثلا بیشتر از 50 کیلومتر. برای من این قانون توئه؟ آره چون که من گفتم که شهرم می بود، حالا تو یزد، فاصله بین می بود و یزد 50 کیلومتره. هر چقدر فاصله کنی بیشتر <تصفيق> میشه، سفر میشه. تو زیر 5 کیلومتر سفر نمیدونی. بس اینا باطلی گیره. به چی بستگی داره؟ بزی... م... کجا بریم؟ شاید مثلا سفر بطرم بریم ولی سفر حساب نشه مگه, مگه نمیگن سفر درون شهری برون شهری؟ م... حالا اینطورت که در میارن شنیدم درسته ولی سفر درون شهری م... بستگی داره انتظار داشته باشیم از سفر خب تو چه انتظاری از پر... داری از سفر؟ انتظار من را چه هر چی بگم پردازی یه چیز خیالیه چون من زیاد سفر نکردم ولی فکر میکنم که باید آدم های جدید رو بشیم با فرهنگ های جدید. با شاید معقولی شاید... جدید آره ولی تو خیابون بغلی یزدم شاید با فرهنگ جدیدی روبرو نشی ولی شاید با یه آدم جدیدی روبرو شی که قبلا نمی‌شناختیش. بر... آدم جدیدی که همه جا هست. خب پس همه جا هم فرصت سفر هست. شاید. اصلا بدون آدم جدیدم میشه اصلا سفر ذهنی هم داریم آدم ذهنی سفر کنه. تو همون جایی که نشستی یعنی همین جایی که تو الان نشستی میتونی سفر کنی سفر که بله میشه میتونیم یه دنیا خیالی بسازیم میتونیم یه دنیا خیالی بسازیم بریم اون جا بگردیم اه. همه چی هم مطابق میلمون باشه ولی اون سفر ذهنی فکر نکنم چیز خوبی باشه چرا خوب نیست خیال پردازی کلا اصلا چیز خوبی نیست چون خیال پردازی اصلا چیز خوبی نیست نه رو چه حساب اینو میگه؟ بشر خیلی از چیزایی رو که خلق کرده اولش خیال بوده ببینید خیال پردازی با رویا پردازی فرق داره خیال پردازی یعنی ما خوام م... که شرط به وفق میل من باشه اه... یعنی... اه... نلوزو من میتونی مثلا حتی تو سفری هم که میکنی توش به مانع بر بخوری بر خلاف میلت بشه این دیگه دست توه تو, تو تنظیمش میکنی این هم اگر باشه اعتمالم بر اساس تجربای قبلی سفر بوده درسته؟ همش پستگی به خودت داره تو نویسنده اون داستانی میتونی هر جور بنویسیش میتونی با دردسر بنویسی با تصادف بنویسی میتونی هم نه خیلی محافظ کارانه همشو با خیر و خوشی بنویسی از از داره مسفر نیست با واقعیت خیلی فرق داره آره با واقعیت فرق داشته باشه ولی چه اهمیتی داره؟ مگه وقتی تو در عالم واقع سفر می کنی باز تا حدود زیادی خیلی بسته به دیدگاهت و خیالات خودتی خودت دیگه یعنی محدودی به نگاه و برداشت خودت از واقعیت درسته؟ ها. درسته یعنی لزومن هم. وقتی تو مثلا میری به مشهد تمام واقعیت رو که نمی‌بینی که باز به اندازه ذهن خودت و اون چارچوب فکری خودت نگاه می کنی درسته شاید برای یک نفر دیگه اگر دو نفر بریم برای یک نفر دیگه شاید تجربه متفاوتی با من داشته دقیقا دقیقا اون یه چیزای دیگه ای رو می بینه شاید بشه سفر ذهنی داشته باشیم شما داشتید سفر ذهنی؟ بله خیلی زیاد فاید مثلا <مش> ای... مثلا ای... چه فایده بشه؟ سفرای ذهنی اولین ای که برام داره لذت بخشه لذت میبرم درست و بعد کمک میکنه که از اون چیزی که هستم و از اون جایی که هستم فراتر برم واقعا کمک میکنه؟ واقعا کمک میکنه اینو شوقی نمیکنم. من فکر نکنم بهم همکم کرده باشه ببین یه, یه مثال میزنم حالا شاید این مثال ملموس از داستان خودم باشه اه. اگر اشتباه نکنم یه, یه جایی توی قرن 18 یه, یه آقایی به نام خاویر مایستر اه. اه. این به مدت چهل روز اگر اشتباه نکنم اه. بنا به دلیلی زندانی میشه در اتاق خودش توی آپارتمان خودش توی فرانسه. و این شروع میکنه به سفر کردن توی اتاق خودش و این روی کتاب می نویسه اسم کتاب هست A Journey Round ما room یعنی سفری به دور اتاقم اتاقا. و این یکی از بهترین کتابایی هستش که من تو عمرم خوندم یه مقدار زیادی از این سفر خب ذهنیه درسته که حالا در عالم واقعیت اتفاق میفته ولی این آدم شروع میکنه مثلا فاصله بین دم در اتاق و تا سندلیش رو 20 صفحه در صفحه نمیدونم چقدر خیلی وقتیش من کتاب خوندم مینویسه فاصله بین تخت و پنجره خودش یه یه یه فصله که یه یه فصل کتابه یعنی اون کل صفات تو هم اتاقش بوده کل اصلا آره کلش زندانی بوده تو اون اتاق این من... چطوری که نوشته تو اتاق بوده یا یه چیزی خیال پردازی که نه واقعا چه واقع این این, این تیکش واقعی این آدم واقعا چهل روز زندانی بوده در اون اتاق نه اینو میدونم چیزی که نوشته تو... اه... تو محدود اتاقش بوده تو منطدی اتاق آره چیزی که نوشته تو محدود اتاقه جدید و آدم جدید به هیچ وجه نه آدمی هست نه جای جدیدی هست این محدود به یک اتاقه و این سفر شده. می کنه به دور اتاق یعنی از صندلی به تخت از تخت به اصلا این عوض کردن لباساش و لباس خواب پوشیدن و آماده این سفر شدن و عظیمت به مثلا تخت خواب از اونجا به پنجره و این این شاهکاره و این شدنیه و این اصلا خیلی کتاب معروف و تأثیر گذاریه در خیلی کار جالبیه من نشینه بودم حالا شنیدی و زمانی که شما ببین سفر اصولا یکی از خواستی که داره اینی که شما چشم و گوشت باز میشه به چیزایی که تا حالا ندیدی در سفر به سرزمین های دور و فرهنگ های خیلی متفاوت مثلا اگر شما پاشی بری آمریکا، شما مجبور میشی به اینکه یه سری چیزها رو ببینی البته به شرطی شاید خیلی مجبورم نشن ولی به هر حال یه شرایطی پیش میاد که یه سری چیزها رو شما باید ببینی اون حتی بعضی وقتا شاید مجبور بشی فرنگ خود رو مسابقه اونا عوض بکنید همین تجربه جدیدیه آره مجبوری مجبوری غذاهایی رو تست کنی مجبوری یک جوری رفتار کنی مجبوری یه سری چیزا رو رعایت بکنی مجبوری مواجه مثلا با یه سری مناظری و اونها رو چه بخوای چه نخوایی چه خوشت بیاد چه خوشت نیاد ببینی بنابراین خواه شما در معرض یک سری اطلاعات جدید قرار میگیرید بنابراین این این یکی از خصوصیات سفر. حالا اونایی که به اصطلاح سفر کن مسافر نمیدونم هر چیزی که اسمشو میذاری در این راه تجربه بیشتری دارند. و استادن. اینا کساییان که توسعه میدن مهارت‌های دیدن و شنیدنشون رو و خیلی چیزای بیشتری رو در سفر می‌بینن. اینا اینا توانمند میشن که با آدمهای فرهنگ‌های مختلف رابطه برقرار کنن با اونا، به چرخن باهاشون زندگی کنن، نمیدونم در یه حد بیشتری با اونا معاشرت بکنن. خیلی مهمه که مثلا یه تور 3 روزه یه چه میدونم دبی یا ترکیه میره. آها، این که 100 درصد. ولی همین اجبار خیلی چیز مهمه. باعث میشه که مجبور و از ناحیه امنمون فراتر بریم. آفرین. حالا شما میبینین اینو؟ لزومی نداره اگر شما از آقای خاویر ما الهام بگیری لزومی نداره پاشید 20,000 هزار کیلومتر ت... ب... ت... اون طرفتر بری آمریکا میتونی اونو یه خیابون بری اون ورتر در محل زندگی در گز اونجایی که تا حالا نرفتی و خودتون مجبور بکنی با یه غریبه صحبت بکنی خودتون مجبور بکنی یه مغازه یه خونه رو که تا حالا عادی از کنارش رد می به یه چشم دیگه ای ببینی <تصفيق> و این رو باز میشه میشه هی کوچکترش کرد شما میتونی در همون خونه خودت در همون آفارتمانی که زندگی میکنی خودتو مجبور بکنی چیزهایی رو که تا حالا ندیدی ببینی و سرعت عبور تو کم بکنی تو سفر خیلی, خیلی وقتا همه سعی سر میکنن سرعتشون رو زیاد بکنن چیزهایی بیشتری رو ببینن مناظر بیشتری رو ببینن آثار تاریخی بیشتری رو ببینن مثلا دو هفته میرن تو اروپا اینطور کشور تو اروپا رو سفر میکنن مثلا انگار که ماراتونه یا میخوان مدال بیارن یا رکورد بزنن میخوان که شما میتونی آهسته ترش بکنی اینو شما میتونی اون اون یک روزی رو که میخوای 10 جا بری و صد تا چیزو ببینی بشینی فقط اتاقت رو یا آپارتمانت رو یا کوچت رو یا خیابونت رو با یه چشم دیگه ای و با جزئیات بیشتری ببینی من مطمئنم خیلی جا تو یزد هستش که تو هنوز ندیدی و اگر با یه چشم دیگه ای ببینی میتونی اسمش رو بذاری سفر دیگه اون وقت نیازی نیست بالاتر از 50 کیلومتر بری که بشه گفت بهش سفر درسته با شما موافقم شاید اونایی هم که زیاد سفر رو میکنن بلد نیستن که چیزایی که دم دستشون رو یه جور دیگه ببینن مجبورن رو عوض بکنن که چیزای جدیدتری ببینن یعنی اگه زیاد ب... ببینن که چیز همون چیزایی که دارن رو یه جور دیگه ببینن شاید یه یعنی خودش سفر باشه شاید بنابراین اون وقت من یه زمانی فکر میکردم اگر کسی از مثلا اون شهری که زندگی میکنه خارج نشده این خیلی چیز بزرگی از دست داده مثلا نست عمرش به و <تصفيق> ولی شاید واقعا اینجور نیست شاید اگر کسی هم شاید این آدمیم بوده تو همون شهر خودش سفر میکرده یا شاید تو ذهن خودش سفر میکرده همه سفرها که سفر خارج از کشور و بین قاره ای نیست. ولی خارج از شهری هم هست که خارج از شهر حتی میگم لزومی نداره شما اصلا میتونید از اول تا آخر عمرت توی اتاق زندگی بکنی ولی در این حال بسیار سفر کرده باشه این که میگن بسیار سفر باید تا پخت شود خامی لزوما <تصفيق> این سفرا بنا مسافت کیلومتر گیری نمیشه شاید شاید من نمیدونم اینا اینا همش دارم تئوری میدم. شاید مسافت اون مسافتیه که از خودت فراتر میری همون که گفتی از ناحیه راحتی خودت فراتر میری اونو رو چه جوری اون یکی با کیلومتر نمیشه سنجید ام. با چه میشه سنجید نمیدونم چقدر از نایم بیرون رفتیم واقعا اندازه‌گیری نداره <تصفيق> فکر کنم واحد اندازه‌گیری داشته باشه شاید چیزی حسی باشه شاید یه چیز حسیه و فقط هم خود اون فرد میتونه بگه که چه میزان سفر کرده و چقدر رشد داشته، چقدر تغییر و تحول داشته و چقدر لذت و معنا داشته اون, اون کارش. ولی اینکه لزومند چه تعداد مهر توی کسی خورده، چند هزار کیلومتر پرواز کرده با هواپیما یا چند صد کیلومتر رانندگی کرده، روی مثلا جاده های آسفالت این این ملاک خوبی شاید برای اون اثر سفر نباشه درسته شاید یکی هم تو همون شهر خودش کلش بیش، بیشتری نسبت به همونی که بین چند تا کشور سفر کرده یاد گرفته باشه حالا آره دیگه اگر اون،, اگر اون یادگیری و اون, اون تاثیر رو تو همون پخته شدن اون خام بگیم شاید واقعا کسی باشه که بدون بدون همه اینا اون خامیش پخته شده باشه و ولی کالا صحبت کنیم که اون پخته شدن و اون خام چه بسلاه به صلاح چه جوری چه جوری نشون میده چه نمودی داره تو زندگی ما شاید اگه این زره جدی باشه بذاریمش برای یه پادکست دیگه پادکست ها رو گوش کردی پادکست ها رو بله گوش کردم درس نداری مگه تو جان درس و درس اینا مگه نداری چرا پادکست گوش میدی دارم اینو آ... تو وقتی زنگ بزنم تبر کردم خیلی هم می‌خوره <تصفيق> قبل از که زنگ بزنم با خودم یکی دو ساعت با خودم کلنجار بزنم کلنجار برم که زنگ بزنم یا نزنم ولی تو خیلی زنگ کلنجار که از زنگ بزنی یا زنگ نزنی و بعدم زنگ می‌زنی چی بگی اون بله همین وقت بعد از اینم که زنگ بزنم دوباره خوصو با خودم میگم خوب سو با خوب کردم خوب تو نکردم <متحدث> <متحدث> حتی و بعد از این که گوشم میکنم دوباره زیاد توجه میکنم به حرفای خودم رای میگم مثلا اینجا سوتی دادم اونجا نه, تو، نه تو خیلی خوب, خوب, خوب, خوب حرف نزنی تو یکی از چهره محبوب این پادکستی میدونستی؟ جدی آره آره, آره، خیلی <متحدث> من دور بریه خودم که شنیدم خیلی دوست دارن حرفای تو رو حرفای منو آره آره, آره. من خودم به میبرم وقتی دوباره هم هم موقعی که حرف میزنم یعنی الان هم بعدن که پادکست رو گوش میدم خیلی جالبه اصلا خیلی معلوم تو حالا نچیز به من بگه حرفات جالبه نه خوب حرف میزنی هم هم حرفات جالبه هم خوب حرف میزنی هم صدای قشنگی داری من فکر کنم فردا یه روزی تو یه پادکست خیلی معروفی داشته باشی خیلی اعتماد به نفستون زیاد شد آره نه واقعا میگم گفتی چی میخوای بخونی چیکاره میخوای بشی من نگفتم ولی هیچی نمیدونم واقعا نمیدونم. بالاخره یه ایده هایی داری دیگه تو کنکور چی میخوای بزنی چیکاره میخوای بشی؟ حالا حالسه من میخوام یا که شریف برم یا برق شریف برای که من راحت امکانم راحت میتونم برم اون بر. آها که بتونی راحت تر امریکا و دانشگاه آمریکا دانشگاه های آمریکا ای ادامه تحصیل بدی. از چند نفر دیگه هم شنیدم دانش اونجا کاربوردی تر از اینجا هستن یعنی اونجا باید خیلی پروش رو پرو اینا کار بکنی یه احساس مکنم همین که برم اونجا هم شاید سفر بشه برام تجربه جدیدی باشه اطمان هست همین که اعتمالا درست هایی که مخونیم تر باشه میتونه باشه چرا نه؟ میتونه باشه الانم مجبورم درس بخونم که پس درس خوب مخ باید خوب بخونی به حال این امکان داره قسمتی از مسیرت باشه و اون رفتن به اونجا و اون اهدافی که داری رو میسر بکنه شاید اگر نتونی مثلا البته اونم اینو نمیگم که استرس بگیری ولی به حال اینکه مکانیک بخونی شاید اون راه رو برات هموارتر بکنه یعنی دانش شریف رو بخونم؟ میگم که مکانیک شریف رخونی شاید مثلا پذیرش گرفتن یا حتی بورسیه گرفتن از یه دانشگاه تو آمریکا رو من نمیدونم اینجوری که شنیدم من خیلی اطلاعاتم تو این زمینه خوب نیست شاید اون راه بلی بلی زیاد میگم اون راه رو هموار بکنه که بتونی راحتر پذیرش و بورسیه بگیری که در یه دانشگاه بهتری بعدش دوباره در ادامه تحصیل بدی و داستان داستانا دیگه درست بخاطر همین سعی کردم که بیشتر درس بخونم دارم مطالعه ببرم بالا شما تو کنکور چند ساعت درس موندی؟ برای کنکور؟ چند ساعت؟ روزی؟ من روزی چهارده ساعت درس موندم. چهارده در ساعت من دیده بودم یه نوشته بودین وقتا ممکنه چهارده ساعت؟ آردي گه مثل خر درس میکنند دیگه چند ساعت میخوایدی؟ چهار ساعت؟ شش ساعت؟ من اگه یک ساعت کمتر بخواد یه جورایی تو هم ساعت ساعت تو بخواب و فکر کنم تو ب... کمتر از اونم قبول میشه و چه هستی من من اونقدر آدم باهوشی نبودم بنابراین مجبور بودم که من زیاد درس بخونم و خیلی حفظ بکنم شما به نظر کم هووش از من،, من باوش از شما هستم اینجوری که بوشنداره اینجوری که بوش به حال تو, تو سمپات گفتی درس می دیگه درست خب کسایی که میرن اونجا از یه یه هوش متوسط به بالا برخوردارن. از لازم نشون میده که باهوش من من سنه تو بودم مثلا خیلی نمیتونستم حرف بزنم. ولی فکر نکنم نگیار خوبی باشه ولی باهوش بودن، خوب حرف زدن با باهوشون خیلی فرق داره. بعضیا اصلا نمیتونن خوب حرف بزنن ولی واقعا هوش خوبی دارن. چیزایی میگن آدم کف میکنه ولی بعضیا خیلی زیاد حرف زدن، خوبم حرف زدن. ولی حرفاشون سطحیه خب ببین همینی که گفتم اصلا میخواستم تو این ببین این نشانه هوش که نسبت به حرف من در جواب حرف من اینو گفتی درست خب پس بنابراین من یه تله گذاشتم و تو افتادی تو اون تله و تو نشون دادی بنابراین نگو که باهوش نیستی تو باهوشی اون جایی که میخوای قبول میشی و بعدم میری دانشگاه و بعدم میفهمی که همه اینا کشکه و یه رای خیلی خوبی اومدی و خوش گذشت خیلی ممنون که زنگ زدی ساعت ده چیز دیگه هم هست که بخواه اضافه کنی به این پادکست شاید باشه ولی میذارم برای پادکست بعدی آره بذارم برای پادکست بعدی منم فردا مسافرم به خاطر این موضوع سفر موضوع پادکست سفر بود به کجا مسافر جان به کجا میخواهم بریم من یه سفر باید برم استانبول سه چهار روز میرم استانبول و برمیکردم سفر کاریه؟ سفر کاری و یعنی اجبار اولش کاری بود ولی خب حالا داریم تفریشم میکنیم ادامه شده یه کار کوچیکی باید اونجا انجام بده خوش بگذره خیلی ممنون مرسی که زنگ زدی بازم زنگ بزن آه، آه، فقط یه چیزی چیزی که یه جورای خاله به کلمه بیاریم تو چند تا پاتکست بعدی اه بگی چیایی که یاد گرفتم چیزایی که یاد گرفتی رو بیانش کنی توی این سفری ای که پیش رو دارم بله آهان باشه باشه حتما, حتما. خیلی ممنون خواهش میکنم قربان تو قربان شما فعلا شب بخیر خدافی خ... خدافی خدافی خدا علی مراد الو سلام سلام چطوری خوبی خوبی آقای مراد ممنون شما چطورین خوبم من داشتم کرکره رو میکشیدم پایین تو زنگ آره تو از زیر کرکره اومدی تو آره اومدم تو الان یه کرکره اومد پایین؟ نه، یک کرکره نیمه, نیمه کاره مونده دیگه الان باریام میتونه بیاد پشت خط بمونه آره نه کرکره، آره من تا چیز نشم خارج نشم بعدی هم میتونه بیاد. میتونه, بیاد. میتونه بیاد خوب خوبه آره چه خبر شما ما مسافریم علی آقا کجا ما داریم می‌ریم ترکیه استانبول خوش و موضوع پادکستم سفر بود سفر؟ آره موضوع خوبیه منم این موضوع خیلی خوب داشته چه موضوعی؟ دوستی دو دوستی دو ام... حالا دوستی دو رو نگه داره برای پادکست بعد باید یه داره شو باید بگم نمیشه نمیشه باید بگی؟ آره. خب پس بگم حالا سفر رو به صحبت کنیم آری من چه وقت داریم ده و سه دقیقه 1 دقیقه دیگه تو بگو دوستیه دورسری آره دوستی دو چرا سرما خوردی نه صدا گرفته نه خلاص خونه ام الان اوکی آره من مهمونی هم گفتم تلفن لوست بده میخوام زنگ بزنم اوکی آره دوستی دو یه مطلبی شما نوشته بودین در زمینه که توش در کاشتنتون کاشتن خب گفته بودین که اومدم به جای یه چیزی به توی زمین بکارم اومدم ها... ول کردم زمینو و همون چیزایی که تو خودش بود جوون زد و اون ارزش بیشتر از این چیزایی بود که خودم بکارم بعد من تو کردم میرم این یه ربط خیلی جالبی به دوستی داره ما وقتی با یه آدمی آشنا میشیم تو تا کار میشه بکنیم که یه کلیشه ای مورد دوستی از قبل بیاریم تحمیل کنیم به این رابطه مثلا دعوت کنیم مثلا سینما چه میدونم؟ یه کارای رایدی که در مورد دوستی است. یه رایدیگش هم اینه که مثل اون زمینه ولش کنیم ببینیم که خودش چه چه محصولی میده بعد من متوجه شدم یه آفتی که من توی دوستی داشتم این بود که دوستی رو میخواستم از قبل یه مفهومی برای خودم تعریف کرده بودم یه آداب و رسوم. یه چیزی میخواستم هیرو آدم های مختلف بیادش کنم بعد دیدم که نه خب بذار ببینم خود این آدم چه پتانسیلی داره و خود رابطه ما چه پتانسیلی داره و دیدم که هی برای هر آدم یه مفهوم دوستی جدید چکره بله من مثلا تا دوست ندارم پنج نفر رو رابطه دارم که هر به یه معنای خاصی با من دوستن هم. بعد همین دیگه این خیلی جالبه آمه. خیلی جالبه من هم میخواستم شما رو الان قربانی منولوب کردم من نه من قربانی نشدم من واقعا استفاده کردم اینی که میگی رو من خیلی باهاش موافقم اینجوری به قضیه نگاه نکرده بودم ایش آره. یعنی در واقع اون ماجرای آقای چی بود اسمشون آقای ژاپنی؟ فوکو آکا. آره آقای فوکو آکا رو با مثلی دوستی با هم ترکیب کردم شدیم خیلی جالبه اون اصول پرما <تصفيق> یا کشاورزی پایدار حالا من تو هر زمینه‌ای از زندگی که فکر کردم دیدم که کاربورد داره و اپلای میشه حالا شما اپلایش کردی تو دوستی به درستی واقعا رابطه با آدمام هم همینه ما نمیتونیم یه الگوی از پیش تعین شده رو تحمیل کنیم و اگرم تحمیل میکنیم همین میشه که شما هی سعی میکنی که با دوستات قرار بذاری حالا مثلا من بعد از ماها این جمعه با تو از دوستای قدیمیم قرار گذاشتیم رفتیم کوه با چندین بار کنسل شدن و نشدن و فلان و اینا ولی وقتی که میری میبینی که دیگه همین که میگی این خودجوش نیست و این دیگه تو داری سعی میکنی که یه دوستی رو از گذشته حفظ بکنی و بری حالا شاید مثلا یه خاطرات قدیمیام برای بارها و بارها تکراری تکرار کنی و ولی دیگه چیزی نداره یعنی yani ره به جایی نمیبره واقعا دیگه, دیگه باید خودشم و باید تمومش کنیم بعضی وقتا بعضی وقتی بعضی وقتی آره شاید بهتری که اجازه بدیم اینا حالا شاید اسمش تموم کردن هم نیست ولی شاید واقعا باید اینا رها بشه دیگه میدونی مثل یه, مثل یه چیزی که به برمیگرده ما یه پیشورز انگار در مورد دوستی داریم دوستی که تا آخر عمر نباشه انگار ناقص آره نه دوستی اصلا میتونه که یه ی پارتی از زندگی آدم باشه و تموم بش افرین آفرن و بعد بعد همو که میبینیم نیاز نیست که بگیم اه خب یه قراری دوباره بذاریم نه ما یه موقعی با هم مثلا زیاد بود. با هم بودیم الان دوباره هم و دیدیم و یادی از اون روز میکنیم تمام نیاز نیست دوباره یه پیوند خیلی مستمري دوباره به هم بر دقیقا من یه نکته دیگه که دیدم خیلی وقتا این تحمیل الگوهای از غب شده به رابطهای دوستی باعث میشه که اون امکانهای خودش رو نادیده بگیریم و نذاریم که اصلا خودش شکوفا بشه یعنی <تصفيق> <تصفيق> اگه من یه پیشنهاد یه نسخه دوستی از بیرون نمی خود این دوستی رابطه های جدید مثلا من یه دوستی داشتم قرار با هم قرار دو دونوازی بکنیم بعد بعد این مدت با بابا این دونوازی اصلا یه کاریه که ما از یه جای دیگه الگو گرفتیم. بعد گفتم آقا اینو رها کن. بذار همینج همو ببینیم فقط. این با شواش رابطه جهیزیی شکل گرفت. تا روز روز بعد از اون رها کردنه امانا خالی خالی بود. ولی بعد هی پر شد، هی پر شد، هی خود به خود یه فعالیت جهیزیی شکل گرفت. آفرین آفرین. آره. من این حرفا رو باید این پادکست می‌دادم چون که از پادکست ریشه گرفته بود. بسیار هم شما کار. بعد هر چند وقت بار مثلا پرتغال تامسون 2 رو از زمین بزنیم صحبت کنم بعد شغل دو چون اونا نه صحبت کردیم در موردش یه چیزایی شده ها. آره الان مثلا داره میوه میده. بسی... آره. بس بسیار عالی. بسیار عالی. سفر بگیم. بسیار هم... رو بگید. وقت. جان؟ های یه دقیقهالو کنم وقت. <تصفح> سفر که من خیلی حرف دادم این پادکست هم طولانیه میتونی بری گوش بدی اونا اونا دیگه تکرار نمیکنم تو بگو که از سفر چه انتظاری داری به نظر دادم باید زیاد سفر کنه کم سفر کنه من به نظرم آدم که حالا خیلی مهم نیست مهم خود فرده فردی آدم ها سفری بعضی, آدم ها بعضی ها سفری بعضی آدما یه جا بشینن مثلا بعضیا بشینن کتاب در مورد سفر بخونن و اونجوری بهتره براشون تا بله اتفاقا اولین کسی هم که از اصفهان زنگ زده بود نظرش همین بود میگفت که من ترجیح میدم بخونم تا اینکه برم سفر. آره خیلیه اینجوریه. بعد انتظاره خیلی مختلفی میشه از سفر. ده. تو خودت انتظار در سفر چیه؟ من خب بستگی به سفر سفره دارم. اگه سفر مثلا طبیعت و اینا باشه، مثلا برم طبیعت اطراف شیراز، انتظارم اینه که دقیقا اوسه با طبیعت. اینه که یه ذره سکوت کنم، اینترنت و لپتاپ و کامپیوتر و این حرفا نباشه. یه قرضای مثلا ساده طبیعی بخورم ولی حالا اگه سفر مثلا سفره به پاریس باشه خب میشه یه نوع سفره دیگه. سفر دیگه این در واقع کلا خب الان من, من میخوام فرض میکنیم البته فرض میکنیم که من میخوام برای عید بیلیت پاریس به شما هدیه بدم هم و شما میدونی که یه یه, یه ایده هایی تا حالا پاریس که نرفتی نه نه, نه. من یه... حالا یه ایده هایی هم داری که مثلا پاریس کجاست چی و اینا چه چه انتظاری دا... الان داری همینجوری بخوای اول همه که میرم برنامه کنسرت ها رو پیدا میکنم همه یه سه چهار کنسرت خیلی خوب میرم اه. بعد موزه لوو رو میرم اه. بعد طبیعت خیلی خوبی داره اطراف پاریس اونا رو هی میرم میگرم اینکه این که شد برنامه انتظارت چیه؟ آها بعد آفری خیلی نکته خوبی شدی کردی انتظارم اینه که انتظار خاصی ندارم. ما خودم میگم که اولش همون تحلیل چیزی از بیرون. دزدی سفر پاریس مثل همون شاید اون از اون گیاهای دارویی داد. مه. آره. یعنی میگم این سفره هم خوبه که چیزش نکنی. یه چیزیه ذهنی بشه، یک چیزیه از لحشت تحلیل نکنی. برو خودش کنی. پس سن، مثلا سعی میکنی بدون انتظار بری پاریس؟ آره، آره. نگاه خونه یه چیزایی برای انتظاردار انتظار دار. مثل این کنسرت رفتن و مثل موزه، مثل اینا خوب. مه. ولی پیشش دیگه را میفتم مثلا خب خیابون بریم قدم بزنیم اینجا مثلا یه کافت بذارم یه چیزی بخورم یا یه دوست پیدا کردم یه فلان چون آخه زندگی توان هم تقوان بعد خب مثلا... تو بس معتقدی که خود زندگی هم یه سفره آره خیلی مثلا ولی سفره چیز نیست تو اینگلیزی بکنم دو تا کلمه داریم تیریپو داریم و یه کلمه جیرنی فکر کنم چشم... تریپ هست، ترافلینگ هست، جرنی هست آره یه کشف کنم معنیه نمیده که مثلا حالت چیز داره کشف کردن داره که رامی می افتی و مثلا میری بی مقصد خاصی نداره، اون... درمان خاصی نداره اون جرنیه که حالا ما تیه طریق و سیر و سفر و سیر و سلوک و سفر. آره زندگی میگیم سفره به نظران جرنیه تریپ نیست اگه به معنی جرنی بگیریم آره زندگی سفر ولی خب این, این نگرش شماست دیگه خیلیا زندگی رو هم به شکل تریپ بهش نگاه میکنن که میخوان تریپ دستینیشن داره یعنی مقصد داره از یعنی از شما از یه جایی میری و به یه جایی میرسی و خیلی تو زندگی میخوان یه راهی پیدا بکنن راهشون رو پیدا بکنن مقصدشونو بدونن کجاست اون نقطه رو بذارن نقطه موفقیت که وقتی بهش میرسن بگن ما موفق شدیم آره. اینم به حال یک, یک فوزن... نوعی از سفر دیگه آره ولی خب اینم این بازم خودش دو مدل میشه یه مدل اونایی که یه راهی از قبل برمیدارن انتخاب میکنن دوباره میرن مثل یه سخنرانی گوش میزن میگفت یه کوستی الان شده بچه از دوست دلگی توش که تا استخدام رسمی نشه این کوست تموم نمیشه <تصفيق> مثلا مدرسه و بعد حالا دانشگاه و بعد استخدام بشه و, و حالا قدیم توی ریسایسدگی تو استخدام بشه حالا نتیجه شده پیمانی و قراردادی و فلان و بعد استخدام مثلا یه یه مسیریه که از, از پیش هست خب حالا یه مدل دیگه داریم که نه مسیر داره ولی مسیر رو خودش می‌سازه یه مدل دیگه هم داریم که اصلا مسیر اله نشده اصلا هدف نداره حالا من میگم آدمایی که هدف دار هستن تریپ زندگی می‌کننم ممکنه که یا مسیرشون رو از یه جایی بگیرن یا مسیرشون رو خودشون میکنه. بکنن آه، ممکنه آه. من دارم میرم سفر توصیهی داری برای من؟ توصیه هم اینه که کجا؟ این خیلی مهمه استانبول استانبول یه ذر جنس بیاریم دفت <laughs> چی بیارم جنس بیارم؟ خردم در بذار این سوالو من از چند نفر پرسیدم از تا هم بپرسم سی دلار دولار به مسافرای خارج از کشور دولت میده با یه سبسیدی 500 تومن تقریبا از از بازار آزاده دلارش که من فکر کردم اگر یک میلیون نفر در سال این دلار رو بگیرن یه چیزی بوده سد و پنجاه تومن سبسیده آه. به نظر تو با چه منطقی دولت اینو به مسافر خارج از کشور میده؟ خب والا آخر نگاه کن اگه بقیه کارا طبق منطق بود برای ما با یه پیدا میکردی. منطق اینه که کسی دادش درمه بده. در منطق منطقی نه که قبلی‌ها این کارو میکردن پس ما هم باید ادامه بدیم چون اگه اینو مندی داد همه درونه. حالا حالا تو بهترین منطقی رو که تو فکر میکنی میتونه این کار داشته باشه چیه؟ بهتری از خودت نه از حالا اون کسایی که فرض میکنی دیدشون اونجوری و اون منطشه به نظر من اینه که دولت میگه من خودم عامل این اختلاف ارزش پولم <تصفح> پس بذارین شکافو یه ذره خودم پر کنم یه جوری چون که دولت عامل این شکافه خود نهاد دولت کدوم <تصفح> شکاف شکاف نیست چرا شکاف در، وجود کارگر ساده توی ایران با دستمزد یه کارگر شکاف اختلاف ارزش پول یعنی من اگه یک سال اینجا کار کنم پولامو جمع کنم اندازه مثلا کسی که سه ماه ترکیه کار کرده پولاشو جمع کرده آره دارد... ولی اون کسی که خیلی شکاف داره که مسافرت خارج از کشور میره با یه آدم مرفه بی دردی مثل من که مشکل خیلی هم مشکل مالی نداره میره مسافرت خارجی دیگه و یعنی. چه چل... چلو می‌داره بره میتونه نره آره حالا عراق و افغانستان یا یه کشور نزدیک میره تا پاریس مثلا دیگه واقعا از مسافرت نمیخواد. ولی اگر تو ویزای پاریس تشته باشی به تو تعلق میگیده خب میگم که اینا هم به نظر خیلی بیمنتره خیلی بیمنتره نظر خوبیتون چیه؟ من نظرم رو برای یه نفر گفتم دیگه گوش میده دیگه تکرارش نکن. چون یه تئوری داشتم تب به معمول تهوری رو گفتم بسیار خوب خیلی ممنون بابت به اه بابت اه... چیه دو بود یادم رفت دوستیه دو. دوستیه دو منتظر پرتغال تامسون دو اینا هستیم این جدی؟ آره. چرا؟ چون ساعتی شب من این شب خونه خودم نیستم که زنی زدم باید زنی زنی از خونه خودت نمیتونی زنگ بزنی؟ آره چرا؟ تلفن ندارم شادم نمیتونم با تلفن عمومی موبایلم اصلا انتظر ندشته باشی با موبایل این 100 تا اینو مگه همیشه زن با موبایل زنگ نمیزادی نه من همیشه با تلفن عمومی زنگ میزدم آ یعنی پول تلفن زیاد میشه آره جدی میگی آره چقدر میشه نمیدونم با موبایل خیلی میشه مثلا تو اگه ده دقیقه صحبت کنی 10 تا مثلا ده شست تومن هفتا تومن میشه هفتت هزار تومن میشه دیگه بیشه. الان مثلا سی سه دقیقه شده تا حالا سی و سه میشه سه هزار تومن اه... بیشتر میشه پنج تومن پنج هزار تومن ما دانشتیم و هنرمندیم هنرمند بعد از همه زندگیش بزنه برای هنرش یه استدلال یعنی واقعا تو مشکل پنج هزار تومن داری که به پادکست من زنگ دارم. نه واقعا نا... من این 5000 پ... تومانو اصلا چیز میکنم اینو من فاندش میکنم برای تو اگر مشکلی نه میذاریم اصلا رو پادکست ببینیم پادکست ببینیم کی میتونه این 5000 رو تغییر کنه برای این این حالا ای کس... تا این حد بعد با موبایلم اخر راحت نیستم تو صحبت کردم اینم هست ببین اخر من من سیستمم یه جوریه که خیلی پیچیده تکنیکی پیدا میکنه اگه من بخوام زنگ بزنم آره خیلی خیلی کسافت کاری میشه به خاطر همین ترجیح میدم اون 5000 تومانه رو برای تو فاند بکنم نه خب میشه یه کاری کرد من مثلا یه تلفن عمومی نزدیک‌تر پیدا کنم بعد شب تلفن عمومی مگه رایگان اونجا مگه پولی نیست چرا پولیه ولی تر از موبایله خیلی ارزان‌تره کیفیت صدایش آخه فقط مثال پول نیست مثلا که کیفیت صدای گوشیه، چیز بهتره موبایل بعد آنتن نمیده بعد این ایران چند وقتی تو محله ماهی آنتنش میره و اصلا یه جوری بدی شده خب بعد اگه من زنگ بزنم اگه فرق میکنه منم باید به موبایل تو زنگ بزنم دیگه اه... یه مشکل کمتر میشه اونجوری در یه... یه مشکل کم. <تصفيق> بسیار خوب پس این هم مثلا میتونیم به عنوان این مشکل مالی و زنگ زدن و کیفیت اینا رو فکرم اصلا به عنوان موضوع صحبت میناشه مثل یه آدم میکنه مشکل گفته نه خوب شد من فکر میکنم که البته بیشتر چیز که گفتی مشکل نبود بهانه داری می پنج هزار تومن از اون الوااتات تو اون با دوستات میری بیلونونه اینا بذاشت کنار در پادکست من زنگ بزن این داستان ها هم برای من نگو دیگه آره آره بربان تو من یک کاری داشتم با تو شبه دیگه دیگه وقت داریم نخواه اوکی باشه برنامی بعد باشه تو خدافیس خدافیس